بسم الله الرحمن الرحیم اول امپیش اجلاسیه کرسی نظیر خردازیه تخصیص کتاب به خبر باهت دوازده ی خرداد 1391 ارای دهنده استاد خالد قفوری مدیر جلسه جناب استاد نایمیان ناظر جلسه دکتر موسا بند. کمیته داوران حضرت اللہ غاینی حضرت اللہ وایزی جناب استاد رضایی اصفهانی، جناب استاد سررامی و جناب استاد یزدهی، کمیته ناقدان، آیت الله رحمانی زبزوری، جناب آیت الله محمدی قاینی، جناب حجت الاسلام و خادمی کوشا، جناب بابایی، حجت کرسی که ایشان اقامت خواهند داشت، درخ پرزی دروازه. اینکه میذگر و نیز میز مستقیمی به ورشدین پایینی میز نداره دیگه پیستان خواستن اصلاح هم بکنن سرت نباشه بر رو هندی منو شجع داده عصبتی دوست دوسته من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلین الله العالمین ابو القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین الله الله الله الله تشکر میکنم از بزرگواران زحمت کشیدن و وقت و فرصت به این جانب دادن برای ارائه مطلبی در عرصه ال اصول البته اگر اجازه بفرمایید من عربی صحبت کنم اشکال ندارد یا فارسی همین به زبان ایرانی صحبت کنی بهتر از ایرانی. زبان ایرانی لرداره تو فارسی هرچی باید بفهمی. نه جاله ی زبانی با اشاره ام داره. حالا حالا فارسی, فارسی،, فارسی،, فارسی، نه، نه، نه. زبان ایرانی <تصفح> حالا فارسی, فارسی تولید شده بر همه زبان. تو میفهم همه به فارسی سوگاتی. باشه وقتی ایرانی به زبان علم اسلام هم خاطر به خاص نجفیا میگه فارسی صحبت حالا مراسم اجتماع فارسی خالص اخلاقی اگه چه چون که بزرگوار میخوان استاد قفوری سری بفرمایند عربی فکر می کنم روانتر سری تربیت بده فارسی شاید به مقداری آرامتر بده و پیش بر بحثو اگر در روحش هم تو هم عربی باشه اینت دوهی فهم مسئله از اساس چه بحثی بود دقیقاً میشه که ما خودمون فرض نمی کنیم گرفته یا نه ولی شو شو هم با در این حالش کار نداره مثلا دا... من علیتون نوشتهشم عادی بوده برادر در خدمتم دوستون و رحیم تا تو کامل میشه اینطور البته حالا من باشه فارسی باشه عربی عراقی عربیه عربی عراقی عربی دیگ وقتی که ما سن کردیم در این بحث احسنی چقدر میدیم در موضوع تخصیص کتاب بی خبره واحد معمولا این بحث به این شکل مطرح میشه در کتاب های اصولی و احیانا فتحی امر دایره بین نفی و اثباته یا تخصیص کتاب به خبر واحد یا فذیرفته میشه یا پذیرفته نمیشه بنده در این زمینه سعی کردم یه چیز دیگه مطرح میکنم و این مسئله ضابطه مند و روشمند مسئله تخصیص کتاب خبر واحد چون من در این مدت در واقع در مباحث فقهی مختلف با مشکلات جدی روبرو شدم از این جهت به این بحث برداختم یعنی بر اساس نیاز فقهی رفتم سراغ این بحث مباحث مطرح کردم در آخر مقاله هم آمده به علمان نمونه ها بر اساس این روش من به نتایج متفاوت با نظرات مشفور و رایجگاه حتی تفاوت دارد با اجماع مستند این مخالفت همین مسئله آیا وقتی مسئله تخصیص کتاب به خبر واحد میپذیریم همین جوری آزابطه داریم کلمات متقدمین تقریبا سعی کردم تا حد امکان استقصاء کامل البته در حد وسع و در حد که منابع به ما کمک میکند سعی کردم نزدیک 24 نفر از متقدمین کلمات اونها و نظرات اونها درباره تخصیص کتاب به خبر واحد یا گاهی اگر همین مسئله هم متعرض نشده‌اند اصل حجیت خبر واحد از این هم من استفاده کردم چون اگر اونها منکر حجیت خبر واحد میشن بالاخره قهران تخصیص کتاب به خبر واحد هم نمیپذیرن دیگه تا زمان علامه، تا قرن هشتم، یعنی بزرگان ما و مؤسسان و بنیانگذاران مذهب ما معمولاً مسئله تخصیص کتاب به خبر واحد نپذیرفتند. تا زمان علامه مسئله عوض شد و اصل حجیت خبر واحد پذیرفته شده و قهراند. بله تخصیص کتاب خبر واحد هم پذیرفته شده و اون شد یکی از مسلمات فقه امامیه از زمان علامه به بعد شروع کردم از متقدمین تا بله تا محقق حلی و علامه حلی عبارت ایشون اینه نسبت به درباره قران و سنت میگه ان متنه متن قران قطعی و دلالته ظنیه و خبر الواحد بالعکس تساویا این عبارت مرحوم علامه در این زمینه بعد از علامه تکوتوک برخ از بزرگان هم گاهی پیدا میشن نظر متقدمین انتخاب کردن مانند محقق اردبیری و بهائی الدین عاملی و وحید بهبهانی و دو سه نفر از معاصرین هم و شیخ انصاری به یک نحوی هم تمایل دارد به این نظر که مسئله تخصیص کتاب به خبر واحد به صورت مطلق نمیپذیره ایشون خبر قابل اعتماد و خبر موسوق میپذیره و ایشون میگه اصطلاح خبر صحیح نزد متقدمین بفمون معنا. مرادشون از صحیح نه صحیح اصطلاحی صحیح که قابل اتمئنان هست بعد از این من پرداختم به بررسی ادله مانعین از تخصیص کتاب به خبر واحد و ادله مجووزین ما به خاطر ذیق وقت از این نباحث می‌گذریم می‌ریم سراغ بحث اصلی بحث اصلی این ادعای بنده که مسئله تخصیص کتاب به خبر واحد نیازمند ذابطه عمده بحث من متمرکز روی دو مرحله در مرحله اول ادعا کردم خود ادله حجیت خبر واحد قاصر است که شامل هر خبر واحد باشد خیلی اطلاق ندارد خاطر که حجیت خبر واحد فی نفسی با آیات نمیشه ثابت کرد با روایات هم همینطور روایات قابل خدشه و روایات ناظر به یک سطح خاصی از راویان که توثیق شدند اصلا به عنوان راوی نبودن بلکه از بزرگان مانندیون ابن عبدالرحمن و در حد افتا بودن و یا مثلا سفراء حضرات ما ادى عني فعني ادیان فانهما انهما اثقتان المأمونان این تعابیر مربوطه به یک راوی ناقل یک خبر سازگاری ندارد این یک خاص راجع به یک سطح خاصه نمیشه تعمیم داد عمده دا ادله حجیت خبر واحد سیره سیره اقلائی و این سیره اقلائی مطلق نیست به خاطری که دلیل لبی و دلیل لبی اطلاق ندارد قدر متیقن باید در نظر گرفت قدر متیقن خبر واحد که موسوق قابل اعتماد اقلا بیش اهمیت میدن اما هر خبر واحد اقلا بیش اعتنانه میکنن حد اقل ما شک میکنیم که سیره عقلایی گسترش اگر وسیع اگر وسیع نبود اگه اگر شک میکنیم دیگه نمیشه به این سیره استناد کرد نکته دوم درباره سیره ما اگر نگاه میکنیم مستقیما میبینیم سراغ عقلا چگونه عمل میکنن ببینیم گاهی عقلا اهمیت خبر در نظر می گیرند گاهی مضمون خبر نگاه می کنند اگر خبر ساده بود، عادی بود می پذیرند اگر خبر عجیب و غریب، توش معجزه، توش خیلی غیر متوقع، غیر منتظره بود اونجا معمولاً بی این سادگی به خبر واحد عمل نمی کنن دنبال شواهد می رفتن. یا گاهی جهت خبر منبع خبر نگاه می کنن. در چه حدی این شخص شخص مخبر عادی یا حدود ده مورد من سعی کردم اونجا در این مقاله البته متاسفانه در مقاله که خدمت حضارات این نیومده بعدا من اضافه کردم بس نمیشه گفت عمل اقلاء یک نواخت در همه موارده به خبر واحد عمل میکنه. نه در موارد بسیار محدوده و اکثر موارد میرن دنبال شواهد و قراینه و خبر موسوقه بله سیره متشرعه هم همینطور خب وقت ما 24 نفر از بزرگان ما بررسی کردیم دیدیم موضعشون منفی نسبت به عمل به خبر واحده این از متقدمین و این عبارت این آقایون نسبت میدن به مذهبه نه فقط این فقها ها و اصولی ها میگن نظر ما اینه اصلا نسبت میدن به مذهبه یعنی موضع رسمی مذهبه تشیعه عدم پذیرفتن خبر واحد در مقابل اهل سنت و این حتی مخالفین هم میفهمند فهمن که موضع شیعه همینه یه چیز خیلی آشکار و معلوم بود لذا اگر ما ادعا میکنیم سیره متشبعیه هست در این زمینه قائم بر خبر بخبر موسوق نمطلقه خبر واحد شواهد هم زیاد من آوردم خیلی شواهد متعدد از روایات از کلمات فقه ها در این زنین بس اصل در واقع دلیل حجیت خبر واحد انقدر گسترش وسیع نیست یعنی اقتضای توسیع ندارد دلیل دوم ادعا کردم اگر از این مرحله اول، کردیم رو می‌کردیم روی موانع میشیم مهمترین موانع مسئله اخبار اخبار بله طرح روایات مخالف با کتاب و و این روایات عرض و روایات طرح البته اکثر این روایاتی وارده از جهد سند معتبر ما بین صحیح موسق و و مسححه و این حالا تک و تک از این روایات شاید سندش مشکل دارد لذا این روایات قابل اعتماده این روایات در واقع به منزل یک مانعه بگه همچ... همین نمیشه روایات میفذیری و عمل میکنه به روایات این روایات باید عرضه میشه بر قرآنه نباید مخالفت دارد با قرآن لذا این روایات محدوده خجیت خبر واحد بالاخره محدود میکند مرحله مرحله دوم مسئله تخصیص و تقیید البته مراد از تخصیص عنوان مسئله اینه و الا مراد عم از تقیید و تخصیصه اصل این قاعده اصل این قاعده یه ای قاعده عرفی قاعده عقلی نیست متاسفانه کلمات بعضی ها ازش آدم برداش میکنه، به صورت یک قاعده عقلی تلقی میکنن. لذا نحوه تعامل با این قاعده تعامل کاملا عقلی و ریاضی در حالی که این یه قاعده عرفی قاعده عرفی قاعد به عرف مراجعه کنیم کنی ببینیم عرف کجا به تخصیص و تقید قائل میشن کجا قائل نیست به عرف مراجعه کنیم نبی عقل میان میگیم قرآن حجیت دارد روایت حجیت دارد و جمع میکنیم بین قرآن و این حجت این حجت این این که این منطق منطق ریاضی منطق عقلی منطق اور و عقلا نیست او اینجوری جمع نمیکنن یک حجت خیلی قوی و مستحکم مانند قرآن کریم در حد سنت عرف نمیبینن البته منظور سنت نه سنت واقعی ما مستقیما از معصوم روایات دریافت نمیکنیم ما خبر زراره خبر محمد ابن مسلم در دست ما هست و همه میدونن مشکلات روایات چیه نقل به معنا داریم تقطیع داریم تصفیف داریم خیانت داریم در روا... در روایات گاهی چیزی هست سخت داریم در روایات حتی گاهی سطر سطرو نمیم ازت روایت میوفته یک مطلب مهم یک جمله مهم گاهی مثلا حس میشه از روایات مشکلات زیاد داریم جهت صدور روایات مشکل داریم حمل برتقیه اله ماشاءالله تحذیبه این پره تحذیبه و از سار شیخ پر از این آمد هم صاحب و هم روش اضافه کرد دیگه نوید در سلطه روایات ما حمل برتقیه میکنه و فی به هر حال ما مشکلات جدی داریم نسبت به این روایات خب به این آسانی ما نمیتونیم جرأت میکنیم میاییم این قرآن که کلام خدا کلام خدا نه مسئله احساساتی کلام خدا به معنای یک سند مهم و سند قابل اعتماد از طرف خدا تا روز قیامته این وقتی مگید کلام خدا نه فقط مسئله بعد اعتقادی دارد و بعد احساساتی که ما باید بالاخره سرمون میاریم پایین در مقابل قرآن این نیست مسئله بالاتر از این این به عنوان انا نحنا نزرنا الذكر و انا لحافظون تا روز قیامت این یک سند الهی قابل اعتماد این سند در مقابل سند دیگری هم داریم سنت همچین امتیازاتی که ندارد و این قرآن در همه خانه ها خونده میشه همه مسلمانان میخونن همه مفاهیم قرآن و قیام های قرآنی همه مسلمانان متوجه میشن این مرتکز میشه راسخ میشه در ازهان بعدن به خاطر یک روایت خبر زراره همینجوری تک... تنهایی میاد اقدام میکنن به تخصیص همچنین کاری غیر منطقی و غیر عرفی به نظر رسد. مانند مسائل عرفی دیگری اگر مقایسه میکنیم یک قانونی از جهت بالا صادر میشه مانند ریاست جمهوری یا هر سمت دیگری هر جهت دیگری اگر صادر میشه اگر بنا بود این تخصیص میخوره باید از یک جهت در حد قواره جهت که صادر کننده اصل قانون و اصل دستور نه از یک کارمند معمولی ما این پذیریم ولا این متدین سقه هم هست اووقات به حرف این شخص حتی اگر هم سقه بود عمل نمیکنن ترتیب اثر نمیکنن. وقتی اقدام میکنن به تخصیص یا تقیید منتظر میمانند یک دلیل و مستحکم قابل اعتماد یا خود این جهت اقدام میکنن به تخصیص و تقیید یا یک جهت دیگری قابل اعتماد جهت عرف مهمترین دلیل بنده اینه و باز هم اضافه میکنم مسئله سیره متشرعه این تأكید و تصریح فقهاء ما و بزرگان ما به این شکل اقدام نمی به تخصیص کتاب به خبر واحد بلکه یا به خبر متواتر یا خبر متعقن یا خبر محفوف به قرائن یا اخبار که قابل اطمینان معمولاً با این شرایط اقدام میکنن به مسئله تقیید و تخصیص والحمد لله رب العالمین <تصفيق> جو اگر یک خطی در عنوانم تعبیر تقنین رو به کار گرفتید؟ این رو هم توضیح فرمایید؟ بله تقنین جو... تخصیص رو اصل بحث در واقع عرض کردم امر دایر بین نفی و اثبات نیست هدف من ارائه زابطه من. بله و البته خوب که شما فرمودی من زابط... اصل ظابط هم نه عرض نکردم اصل ظابط دو طرف ما داریم خود قرآن کریم است و روایاتی که مخصص حالا موسوق یا غیر موسوق به هر حال ما اگر میخواییم اقدام میکنیم به تخصیص تخصیص آیا جاری میشه جاری نمیشه اول باید میریم سراغ خود این عمومات و اطلاقات قرآن میبینیم در چه حدی هست یا اطلاق یک عموم معمولیه یا یک اطلاق عمومی مستحکم یعنی گاهی برخز آیات میبینیم از سیاق این آیات وقتی نگاش میکنیم میبینیم این یک اطلاق عادی نیست قبل و بعدش کل سیاق اگر نگاه میکنیم خود قرآن تعمد دارد میخواد یک مطلب کلی خواد اونجا توضیح میده اگر بنابود بعدن یه مخصص بیاد چی در قرآن در سنت این غیر غیرعرفی که قرآن میاد این اطلاق و این عموم بی این ورس مطرح مدرح میکند به عنوان مثلا فرسون نصف آیت ارس به عنوان یک فریزه از خدا در کتاب کانادالی که فی الكتاب مستورا نمیدونم چه این تاکیدات با این تأکیدات به این آسانی ما نمیتونیم مخصص و مقید میپذیریم با این لسان با این بیان قرآنی مستحکم این تاکید میکنه مسئله استحکام مخصص و استحکام مقید معمولا بزرگواران خیلی اهمیت نمیدن وقتی یک اطلاق میبینند، یک عمومی میبینند، البته من نمیخوام نف میکنم گاهی این قاعده اجرانه به در موارد بسیار محدود، کدوم موارد میگن اگر این اطلاق آبی از تقییده، آبی از تخصیص. این خب این مواردش هم خیلی اندکه اما در اکثر موارد اقدام میکنن به آسانی به مسئله تخصیص کتاب در حالی که اگر ما مراجعه میکنیم به این آیات میبینیم لسان این آیات، لسان خیلی نسبت به یعنی که تصریح مانند دلیل سریح، نه فقط در حد ظهور معمولی، یک ظهور معکده اینجوری در این حالات باید هم ما نمیتونیم اقدام میکنیم به لذا هر, هر تخصیصی هر تقییدی به کتاب اول باید خود آیه بررسی میشه فقیه باید زحبت میکته میره راجع به این آیه بررسی میکنه بحث میکنه میبینه قوت و استحکام اطلاقش و عمومش تا چه حدی هست آیا یک مخصص معمولی کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ نه فقط به این زودی میاد جمع میکنه بینه مطلق و مقید و منتهی به تخصیص و تقلب میشه نه اول باید میره سراغ این سند الهی میره سراغ قرآن میبینه این اطلاقاتش و عموماتش تا چه حدی هست دومن میره سراغ خود روایاته گا یک روایت خبر واحد شاید صحیح السند هم هست ولی فیهی مافیهی یعنی بازور مثلا این فقیهی این وزدگار بازور سندش درست میکنن بازور مکنش درست میکنن یک روایته فرزی هم صحبت نمیکنن. یک روایت تقریبا اکسرا پذیرفتن این روایت مشتمل بر فرازهای هیچ فقیهی قائل به این نیست فتوه نمی ده یک دو فراز در این روایت خب این مشکل دارد سندشه مشترکه راویش مشترکه بدون هیچ شاهده میگه با احتمال زیاد مراد فلانی روایت یزید کناسی هم اکثراً میگن صحیحه یزید کناسی در حالی که این فرد مشترکه خب وقتی این روایات فیه انقلت قلت یا گاهی این روایات اگر بررسی میکنیم میبینیم چار پنج روایت میکنیم الحمدللله خب این موسقون بگی دیگه چار پنج روایت نیازی به بحث دارد گایی میبینیم این چار پنج روایت برمیکرده به یک روایته یکی یعنی مثلا سه نفر چار نفر در مجلس امام صادق نشسته بودن سلام الله علیه همه آمدن این روایت نقل کردن میگیم بس این چار پنج روایت بودن بابا این یک روایته یا یک شاگردانی زرارمی ها روایت نقم میکنه این تعدد روایت موجب تعدد روایت نمیشه لذا یه مقدار راجع به خود مخصص و مقید باید کار شود به این آسانی اقدام نکنیم و توازن و تعادل یه تناسب باید باشد بین قوت اطلاق و عموم و استحکام مخصص و مقید باید در نظر گرفته شود. با الحمدلله برادران. تشکر میکنم از جناب استاد آقای دکتر خالد جعفری. بحثی که ارائه تر بودند طبیعتاً یک جوهره اصلی داره و یک بخش های مقدماتی یا لوازم بحث. پیشنهاد و طلب خواهش ما این هست که اساتید بزرگوار ناقد تمرکز رو اون اصل نظری تاکید رو داشته باشن محوریتون حفظ بشه بعضی موارد که جنبه مقدماتی یا هاشیهی داره که اهمیت کمتر ممکنه داشته باشه باعث نشه که اون اصل مسئله رو کمتر وقت بکنیم با فوزش از که بزرگوار در دقیقه در خدمتشون هستیم با تحقیش رو کردن خواهش بزرگوارانی هم که فضای مجازی استفاده میکنن این تذکر رو داشته باشیم ممکنه یکی از من نم... نرمستار مشکل داشته باشیم نرمستار اسکایب استفاده میفرماین از مدرسه مجازی و تلویزیون مجازی محسس هم از اونجا میتوانن جدید در واقع افتتاح شده با از اون هم استفاده بفرماین در خدمت اصلاح بزرگوار هستیم حضرات اساتید دیگه حالا خیلی هم تعارف نفرمایید که بسیار تشکر جو. الله خوشتون یم. یا فاطمه. شوخی هم ارث کنیم. فارسی فکر می‌کنم مشکل خیلی نداش. فقط من فقط این طرف ما معمولاً بزرگواران مزاره التزامی و مزاره این شما هم متقابل خلاص در نظر بگیرید بگیید. بسم برای ضبط برای ضبط برای شما آتیتر و تر, تر بشی. عربیشون رو بخواین با فارسی شما ممائزه کنیم یا فارسی شما عربی شما رو با فارسی شما یکیش انجام بده اگر انجام بدید عربی شما این میشه اساسیت و تولتی از فه سماوات الان فه عربی هاید ایشون هم اکنطل ارد من وقتی یه بار اول میخواستم مکه برن به عنوان مبنده و عرب زبون در وقتی قدمت یکی دوتا از آقایون ربناری خب تقلم اول کلمت الحج من نیم ساعت کردم نوشی ایشان قدرت تفیر و تفتخم و عربی رو داره و میتواند رنوان مولدر عرب داره بود با ساده چشکی رو یا نکنی که فرپر ملیکی رید نه، خیلی بزرگ تو خودت قیاس نکن قیاس باطله، شیره عبوحانی بس. بلی شما این اساسیه تو تلعرزیه شما وقتی به فرسیه میگید میگید اساسیه فست فس، فس ما آواند <تصفح> <تصفح> اسم <تصفح> الله الرحمن الرحیم از الان دعوه شده اسم الله الرحمن الرحیم چند دکتر اویشون در این چند دقیقه تذکر شدن که بایستی روی این چند دکتر اقتدام مصیبه یا؟ که تا یعنی در اینشون مصیبت اولا علاوه بر اینکه ها زمان علامه تخصیص تجربه نشده واقعا ظلم یعنی به صد مثلا در نوشته های شیخ صدوب، شیخ مفید به همطور ابن جونید، ابن عوی عقید یا مثلا 23000 هزار بعد یا آدرس میدن که اصل و کتاب نوشته شده در زمان علمه خب اینا همه به خبر سره عمل میکردن یعنی میخوام بگم این قطروه ایشان حرف جدیدی نیست یعنی یه حرف نیست که ما مثلا میگیم ثابت کنیم که تخصیص کتاب به خبر سقه بود. ما طبق تحقیقی که کردیم قدما اگر به خبر واحد عمل نمی به خبر واحدی بود دیگه سنیان. اونو همینطور عمل میکردن. حشویه بودن دیگه. اونو عمل میکردن به هر خبری. مخصوصا احمد بن همبر که دیگه در سرشته در برابر اونها خبر واحد رو حجت نمی و مرادشون اون خبر است که نزده اونا بوده نه خبر واحد سقه مورد اطمینان و از اون روزی که امام صادق فرمود الامری و ابنه سقتان اما ادیاخ انی یا ادیان امام صادق نیست امام حادی و از اون روزی که این خبر آمد خوب عنوان سقه امر کلی بود ببینید سقه تطبیق شد ایشون به عنوان مسئله شخصی این که شما فرمودید فلان ببین روایات رو میشه به همه همه نسبت داد اینو استاد وحید و قراسانی فرمود شما هر روایتی که از هر امامه به امام دیگر نسبت بدید درسته بباید. شما خیلی زود تیزبین تیز نشید بباید. به حضورتون از بشه این امری و ابنهو این قومده خود سغه است یعنی در اینجا میخواد بگه امری و ابنهو تحت این یعنی انوان یعنی عنوان سغه ملاکه نه اینکه این مسئلهی باشه قاصر و دلاله باشه از اثبات حجیت خبر سغه حتی نه اینجا سغه ملاک شده در زمان احمه مسئله خبر سغه و خبر مورد اطمینان معمول بوده و فقه های شیعه و اصحاب احمه به خبر سغه عمل میکردن به هر خبری که سنیان عمل نمیکردن اونو عمل نمیکردن اونو هر خبری رو حجرد اونو خبر سغه بوده خبر اتمین یعنی خبر واحد وقتی میگن یعنی خبر واحد اگر اسم واحد هم میاد خبر واحد مورده اطمینان بوده نه خبر واحدی که مخالفین بودن و هر حال این نکته که ایشون فرمود تا زمان علامه این مسئله صورت انکار بوده تخصیص پذیرفته نشده این قابل قبول نیست در دلیلی هم ایشون دلیل محکمی ارائه نکرده مثلا چند نفر از اصحاب نظرشون این اصحاب نظرشون به خبر واحدی بودی که اعتبار نداشته نه خبر واحدی که احمه به اونها صحب میدادن خب بعد ایشون فرمود عمده سیره است و سیره دلیل لبیست اطلاق ندارد ببینید وقتی ما میگیم سیره دلیل بر حجیت خبر سقه است بله این حجیت خبر سقه اطلاق نداره معنی نداره سیره بله سیره بر حجیت خبر سقه است شیعه از ابتدا نظرش همین ما معتقدیم که اینطور نبوده که یه زمانی فقهای های شیعه به سیره است، استدلال میکردن بر حجیت مطلق خبر واقعه این نبوده یعنی اون سیرهی که مورد امضای عمه بوده یا عدم الرد بوده اون سیره سیره بر خبر سقه بوده در حجیت خبره صده بوده این هم تخصیص،, تخص، تخصیص بردار نیست یا ابحام داره یا دلیل 20 قدر متیقن اینو معنی نداره در همچون مسئله ای داره ما سر حرفمون هستیم و سر وقتمون بعده این که فرمود ایشون سیره اغلا و عقل به مضمون نگاه میکند خب اگر منظور دیدی که یعنی اغلا به هر خبری عمل نمیکنن به هر خبر موسوقی حتی ولکه اگر در اصول عباید باشه در مسائل مهم اعتقادی باشه اونجا مسائل دیگه مطرحه حتی سیره اغلا در مسائل اعتقادی بحثه که آیا حجت، یا حجت نیست اون مربوط به اونجاست ولی در احکام در احکام سیره عقلا چه اون حکم حکم مهم باشه چه حکم جزئی باشه چه حکم کلی باشه چه حکم جزئی بیشتر حکم کلیه بله هر این که بگیم سیره عقلا عقل و به مضمون نگاه میکنن اگر امر مهمی باشه حتی در خبر ساده هم به حساب دنبال شواهد میگردند بله چون سیره اگه سیره نیست دیگه یعنی شما خود بگه در سیره هم بحث لازمه فحص لازمه همونطور که در عمل به خبر واحد یا در شبه تحریمی حکمی مثلا فحص لازمه در وقتی که سیره اغلا هم بر امر قائم بشه اونجا هم فحث نیست چیزی نکود نداره به هر حال این نکته هم مورد قبول ما نیست ایشون میگه عمل اغلا یک نواخ عمل اغلا یک نواخ نیست فرق میکنه مورد فرق میکنه مورد احکام باشه یا مورد اقاعد باشه و مسائل مهم مربوط به اعتقادات ایشون فرمود دلیل دوم موانع اخبار مخالف با کتاب میگوید باید روایات مخالف بر کتاب ارزش بشه. اولا باید تنقیه کرد که مراد از این که اخبار میگه یا روایات اخبار علاجی میگه بر کتاب عرضه کنید مخالف رو تکن چه مخالفی؟ مطلق مخالف؟ همچ چیزی هیچ که فهم. که هر چه مخالف عمومات و اطلاعات کتاب بود بنده دو کی یافتم چه چیزی کسی می فهمد؟ مخالفت گاهی مخالفت به توای گاهی مخالفت به اطلاق و تغییر گاهی مخالفت به تخصیص... این جور مخالفت هایی مخالفت نیست اصلا. و که شما از این راه بیایید مانع درست کنید مخالفت نیست اصلا. مخالفت به تخصیص، مخالفت به توحید اصلا مخالفت نیست، تعارض نیست. اگه تعارض هم بشه، تعارض بدویه. و با اندک تأمل و بدی رفت میشه. به هر حال این که فرمودید بله اخبار الهییه یکی دیگه از ادله ماس اطروحه ماس نظریه نظریه ای یموز این هم دلیل بر حساب مدعایات حضرت علی نمیشه بعد مساله تغیید و تخصیص آیا قاعده عرفی ای یا قاعده عقلی شما گفتید عقلی ظاهرا عقلی سرمودی نه عرفی و این بله عرفی البته عرف اوغلایی نه عرف عوام و به هر حال اقلاق و صاحبان اهل فر وقتی که یه روایت آم باشه یکی خواست اصل مخالفت در اینجا وجود نداره تا شما تا درست کنید تا آرز و بدبی هم که رفت میشه در حال آقا میگه وقتی شما تمام ما همین چند ای که شما فرمودید هیچ گجاش هی جاشو نتونستیم بپذیریم و سلالله محمد الله محمد, محمد محمد محمد ببساطت ایشون آقای ما قاطعیت داریم در همه چیز. هم بسم الله. الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علیه سیدنا محمد و آله قیبین اب تاهرین و لعن دائما علی اعدای مجمعین من الانه إلى قیام یوم الدین چند نکته است به عنوان این مبادی بحث مطرح کردیر ارز میکنم بعد چند نکته نسبت به این مطالبی که خلاصش رو ابتدا فرمودید یکی این که این تعاریفی که کردید و الفاظی که آبودید بسیار اشنا ناقصه و جا داشت برای تحقیقی که انجام بشه مبادی بحث کامل واضح و طور مستقر بیان بشه نظرم خبر خبرواهی چه خوب بوده گار می خبر این دو قسم محبوفه به قرائن قطعیه غیرمفق قرار قطعیه فقط خبر خبرواهی تو که متواتر نباشد خب خبر واحد با قرینه نه غیر قطعیه و بگید نزاع سر کدومه این اگر مشخص می شد بهتر دیگر اینکه در رابطه با اطلاق شموطی لحاظ و طبیعیا من دون قید حالا در رابطه با اتفاق چهار تا تعبیر حالا بعضیا میگن جمع القیود بعضیا میگن ترک القیود یا رفع القیود بعضیا لحاظ عدم قید ولی ظاهرا قول تحقیق عدم لحاظ قید است و قیود نل لحاظ عدم قیود حالا این مبانی که آیون دارم حالا ایشان بود که به یک تعاریف این توریست این اطلاق داره یعنی قید لحاظ نمی‌شینن که لحاظ می‌کنم عدم قید را دیگر اینکه طول الاطلاق رو شما همیشه شمول گرفتی در حالی که اینطور نیست توریست کاری غیر یه صاحب چون چیزی مطلق است پس این حکم که شامل افراد همه می‌شود به نحو عمومی خیر چون بعدی واسون رو ويا ترتبوا نتیجه اطلاق این است که همه افراد موضوع رو شامل می‌شود علاوه که نتیجه اطلاق گاهی اوقات شمول گاهی اوقات تردید گاهی اوقات هم تعیین افراد اینطور نیست که هر جا اطلاق ثابت شد یعنی حکم همه را میگه لاگت به من انواع عموم و شمول این تعبیر تام نیست دیگر اینکه مقدمات حکمت دوباره میگید یکیش اینه که آقای متکلم در مقام بیان این است که میخواد به حکم به تمام در پنمام افراد تطبیق میشود این هم نیست دوباره خود مقدمات حکمت اینطور طور میگرد متکلم حکیم باشد یک جاد باشد در مقام بیان حکم است و, و حضل و اینا نیست که کلام امکان تغییر داشته باشه چهارم که قیدی در کلام نباشه مرموی او خواندن پنجم از قدر متيقن در مخاطب تقاتب نباشد اینا رو میگن مقدمات اما یکی از مقدماتی یک این نیست که متکلم و مولا میخواهد بیان کند که حکم من همه را شامل می شود همه اطلاق اینجوری نیست یعنی ما با اطلاق همیشه عموم استقراقی رو نمیتونیم ثابت کنیم و نتیجه اش عموم استقرایی نمی شود فرض کنید حالا همین اهل الله البی که حالا قبول دارند مشهور داس اطلاق میکند آیا همه اطلاق ها مثل اهلالله البعی است که میخوام همه افراد رو بگیم چه حکمی دارد یا نه بعضی از اطلاق ها اتوش اموم و اومو در نمی در رابطه با خبر موسوق تعریف میکنید از مفتنو شیخ در در فرائد میکاش کاملتر تعریف یا اقسامشون میگفتید که خبر موسوق سه قسم خبر موسوق صدور موسوق مضمون موسوق المعتن کنم که حالا موسوق صدور سبب موسوق این خبر یا موسوق روات است یا مده روات است یا چون اصحاب اجماع هست یا اصحاب اصولند. هست یا کتاب اینها مورد مورده واقع شده یا اصحاب اجماع از این کتاب نقل می که حالا مروح ساق و سائل موارد مختلف گفته که موسوق به صدور از راهایی به وجود میآید. دیگه در بحث حجیت خبر خوب مبانی مختلف وجود داره اینو یک کاش تذکر میدادید یا میگفتید منظور که کنون مبنان دارید بحث میکنید حجیت خبر سقه، مسلم، شیعه، عدل، هان اینم حالا تو این جزوه توی نیدن بله این خبر که ما خبر واحد حالا این خبر واحد خبر واحد چه خبریست؟ خود خبر نه خبر سقه حجته، خبر موضوع حجته خود هم موضوع در صدور یا مضمون یا متن و این هم جاداش بیان بشه یعنی قرصی در تحرین محل بحث میشد کامل مشخص بشه چی رو میخوایم اثبات کنیم چی رو میخوایم نفی بکنیم به این فرمایش جزوی شما چی اختلافی داره با نظر فرض کنید مشهور یه مرحوم آساب مصطفی خمینی نقل کردید سهران بازم زمین حال ناقصه و مطابق نیست در کتاب تحریرات و مصول میگه که تخصیص به خبر واحد جایز نیست چرا بردعوکون الاخباره یا موسوغون با یکاش کامل بیان میکردی در اون قسمت ایجومی فتح هستل میشینیشونی اصلا ما تو قرآن آم و نداریم ایه. یه نظر با اصلا ما آم نداره همه در مقام اصل تشریع بودن نه بیان ساریت و حکم مساده دومیشون که قری غیر قرینه قطی اصلا ما نداشته ایم هر چه خبر داشته این کپتیش می نظر خود من که هر چه داشی محبوب قرینه بوده اینا حالا به دست ما رسیده این طور شده ولزا این بحث اصلا جا نداره کسی بخواد بحث بکنه سومش این که میگه آقا تقدمی خواست بر آن بر نظر ما به نحو حکومت است نه به نحو تخصیص طور یه بیانی دارد که فتاعثر اینکه نمیشه وقت کتاب را به خبر و صد به یکی از این راه های سگانی میشود گفت یه کاش ستار رو و بیان میکرد حالا این مطالبی حالا خودی جزاستان که ما ندیدیم خلاصه بیانتی که اینجا داشتی اون مطالبی که الان فرمودید از چند جهت اشکال دارد یعنی تو همین حرفای شما هم ابهام هم تناقض یه نکته که حالا خودی ایشون هم فرمودند این طور نبوده که اونو که میگرد خبر وای تق... کتاب خبر وای با هر خبر واحدی هر کسی باشه از هر در بیاد، با هر اوصای، با هر خصوصیتی اهل سنت در رابطه و صورت اول ما که میگونه هر فسق فجر یه نفرم بگه بعدی اول ما ثابت میشه ما که ندارم اولمای ما اینطور باشن یعنی گفته باشن تقسی کتاب با خبر واحد ایه خبرن فی یه رتبتن نمیدونم مشتمل بر هر مزمونی باشه. یقینا اینطور نگفتن و نیست می فرمایید تخصیص کتاب به خراعت غیر منطقی و غیر عرفی است چرا؟ بعد خودتون که سیره داریم منتاج چون دلیل لبی است قدر منتاج نمیشه تمسک بکنیم این چیه حرف غیر منطقی و غیر عرفی است که سیره متشرعه بلکه اقلا بر اون حالا متشرعه بعد حرفی می اصلا منطقی نیست عرفی نیست بعد می گید سیره داریم ولی خود کن که دلیل لبی است و خب باید دنبال مثلا قدر متیقنش بره دیگر میگید آقا نه این مطلب اونقدر واضعه که 25 نفر از بزرگان ما عدم تخصیص به کتاب خبر واحد و اصلا به اصل مذهب نسبت میدادند اگر بخواید بگید بطلان این مطلب مانند بطلان قیاسه که اصلا شیعه معروف است و عدم اما من مانند رو که اونجوری و تا داره 25 نفر این رو به مذهبم نسبت بدن حالا 25 نفر محصولند و با این حکم شرعی ثابت می شود با این حکم اصولی ثابت می شود و این می یک نه می خواهم گیم 25 نفر چون اینجوری گفتن معلوم پس این قاعده غلط است نه تفسیر کتاب بله کتاب خبرواهی جز عباطیل هست نه حالا 25 نفرم گفته باشن خدا رحمت این آقای اهل چندی پیش هم مرحوم شد که کتاب نوشته در رابطه با این که مسئله تفقیقی بولسه 75 نفر باون اسم با و عکسشون آورده اینا میگن بله تمسو که به غیر کتاب و سنت نمی شود کرد این عکسشون هم حرفشون باز اون آقای بزروبا تعجب و کاری نداره کسی میره 75 تا کی 350 تا عکس آقا میاره که چرا به غیر از کتاب و سنت به عقل نمیشه تمسک اینا هم عکسشون هم بیانشون یعنی با اینکه چند نفر این گفتن و ردیف کردن چند تا عکس و نمیدونم گفتار که باتل یا باید عقلی باشه یا باید نقلی بخود و برهان باید در بیاد صرف اینکه حالا 25 تا اینجوری گفتن ماله جزء وازعهاته پس اونایی که گفتن تخصیص جایزه مثلا نه اعتباره به اینا شازن مثلا قابل اعتنا نیستن به این طور نیست برای اینی هست که این 25 نفر هم در حالا خبر سبن در خبر واحد به نحو مطلق نمی گه میگن بعضی از خبرها مثلا می خیال می‌کنیم 5 نفرمون در حقیقت چون پنج تاشون شاگرد مصابن و یک خبر حساب می‌شود ترجمه حالا اینکه من فهمیدم اگر منظور بخواید پنج تا هنوز خبر واحد و این مطلب دیگری است که امکانه پنج تا خبرم همزمان قرر خبر واحد باشه ما صرف اینکه پنج نفر به بخ... وجود میاد خبر یک نفر پنج تا خبر پنج تا راوی مختلف که راس معصوم نشه سنث میشه پنج تا رو باید هم که میگن تعدد برهان به تعدد حد وسطی تعدد و وحدت خبر یعنی اون راوی متعدد باشه یکی باشه این که پنج تا یه روایت رو پنجتا تا راوی میگن حالا ولو هم دقیقا و اینن یکی میشه پنج تا خبر دیگه شما چطور اینو میگید یه خبر یه خبر این چی دیگه و اگر درست فهمیده باشم اینو چطور میفهمید یکی این که میگید آقا عمومات و اطلاقات دو قسمن بعضی عادیان بعضو مستحکم مخصصم هم همینطور اون مستخصص هایی که مستحکمن اونا میتونن مخصص کتاب واقعشن اونایی که عادی نه خود آمهای قرآن هم آم مطلق دو قسمان خود که مستحکم و عادی چیه چی نبفتیم بله مخصص و محکم باشه مستحکم باشه مستح... مستحکم به چی میگن؟ تعریفشیه ملاکشیه خیلی جزوان من چیزی ندیدم یعنی فقط یه ادعای اینطور بود دیگر اینکه که قدید علما هم در کلاماتیتون با تخ... کتاب چنین رفتاری نمی که بیان با خبر واحد قرآن تخصیص با کدوم خبر واحد علما نمی این کار رو و قدید علما هم چنین رفتاری ندارن که بیان قرآن را با خبر واحد تخصیص بسن رسم علما این نیست پس اینکه که عقیده شونه پس شوزه علما حساب نمی اینا دیگر مثلا در همون بیانتون که روایاتی که میگید مخالفه با کتاب بذارید کنار خب اول خود اینا خبر واحدن خب بعد این مخالف همه رو شامل میشه چه اونایی که تخالفش به نفع تبیین باشه چه میخواست مطلق چه منوچ الی آخر اما زالا تخالفیش داره تخالف به تبیین رتبه که این مربوطه به این است که ما آیا الفاظ ببینیم برای معانی ظاهری از شده و تو معانی بالاتر اونا رو رتبه های بالاتر بگیرم یا بگیرم نه الفاظ برای حق پل معانی وز شده اینا مسادی دن الفاظ برای مسادی وز نشدن بعض از مخالفات اینه حالا مثلا چیزی که همه پذیرفتن برای فلیان دوره انسان های لا طعامه طعام همه همه این خوراکی میفهمن معصوم میفهمن ایلا علمی خب علکی کل قرآن بگیم اینطوریه که بعضیش ما تا یه تعویل حساب نمیشه تفسیر قرانه است حقیقتا که بگویند الفاظ برای ارواح معانی جر شده اونم یه نوع مخالفت حساب میشه به حساب فهم حالا اونم یه قسم این که میگه این مخالفت ها همه رو شامل میشه خب حالا آزا اول و بس میشه دلیل و حنابط ثابت میشه یعنی شما اینو مسلم اول فرض میکن که این مخالفه قران رو بهش عمل نکنید این یقینا هم متبایون رو هم آموخاسمت و منود شد و مطلق و مقید و همه رو شامل می شود و از طرف چون روایت گفته به مخالف نباید عمل بکنید پس کتاب قابل تخصیص و تقیید به خبر واحد حساب نمی شود و یک دقیقه به تمام نه و صلی اللہ علا سید محمد و آله تیبین و شما هم نمیگید طیب الله تو بکنید شما خب وقتی شما بگید بعد مون بسم الله الرحمن الرحیم استدامی رو دیگه فکر کنم به نیست؟ نه؟ دیگه فکر کنم و رب العالمین و رسوله و و تشکر از جناب اطلاع دهنده محترم من نکاتی رو به صورت قوملی ابتداع میکنم. که یک نظریه عنوان نظریه به خاطمت در بشه طبیعتاً در هر دانشی به تناسوب همون دانش باید تحصیل گذار باشه نه در دانش دیگر تحصیلش رو به اطبال مثال اگر قرار شد یک نظریه در علم اصول مطرح بشه این این دارای آثاری در علم فقه میشود توی فدیهی هر اصل اصولی طبیعتاً باید در فقه تحصیل باشه نظریه در اصول متناسبه با علم اصول باید جستجور بشه و ببینیم در علم اصول آیا میتواند پراتر از یک قاعده یک خودی تأثیر گذار باشه تا به با عنوان یک نظریه نظریه دو که خب نظریه برای خودش مبانی روشنی داره و خب آثار و روشنی هم باید بیان بشه براش. من فکر می‌کنم در آنچه که اتفاق افتاده در این نوشته یا آنچه که امروز جناب ارائه دهنده محترم ارائه دادند، چندان به این نکته توجه نشده و من منتظر بودم راجب نظریه بودن هم یه دفاعی بکنن حالا شاید بعداً بفرماید چرا نظریه است و چرا یک قاعده اصولی نیست آیا هر قاعده اصولی نظریه است از نظر شما؟ نکته دیگر اینکه که خب نظریه باید مسبوقه به سابقه نباشه در بین علما و خود رای دهنده محترم مواردی رو ذکر کردن که همین نظر رو حالا البته از دیدگاه ایشان داشتند و بعد سعی کرده تفاوتهای <تصفح> آز ذکر کنه که حالا امروز هم به اون ها باز پرداخته نشد که اینا بر اینکه اثبات کنه یک نظریه هست دخید هست و لازم هست این ها بگذریم چند نکته اساسی در هر نوشته ای که به عنوان می‌خوایم نظریه ارائه بدیم به خصوص همین نوشته رو من به صورت خاص میخوام بهش بپردازم لازم هست اون کلمات کلیدی که ما نیاز داریم در این نوشته حالا گذشته از اون اشکال هایی که جناب استاد محمدی فرمودن اون کلماتی که در این جزوه بیان شده خب واقعش خیلی کلیه و دردی رو دوا نمیکنه. کنه خصوصا که مثلا تعریف رو طوری گفتن که شامل تعریف مطلق میشه. می شه و موارد دیگه هم چیزی رو روشن نمیکنه که ما محل دوا رو خوب مشخص بکنیم ببینیم که در این, این کلامات کلیدی در اینجا به ولی یکی از کلاماتی که به نظر من کلیدی بود و هدایت‌نده محترم بیش تر از تو نکردند خود منظور از حجیت و اگر شما به اون منظور از حجیت میپرداختید شاید همین نظری را که میفرمایید نمیفرمیدید و به تعبیر دیگر اگر حجیت یک چیزی رو پذیرفتید دوباره نمی بعد از اینکه پذیرفتید برخلاف حجیتش حرفی بزنید نکته دیگه این که مشخص نشد بالاخره مطلق خبر سقه رو خود شما خود ارائه دهنده محترم قبول داره یا نه اونی که در جزوه فرمودن بنا رو بر حجیت خبر واحد خبر سقه رفتن جلو بنا رو بر این گذاشتن ولی اونچه که امروز در صحبت هاتون بود عدله حجیت خبر رو محدود کردید گفتید اصلا شامل و مطلق خبر واحد و هر جا که میگیم خبر واحد منظور خبر عادله. خبر سقه هست نه اینکه خبر اون کسی که در تعویر مرحوم شیخ توسی و, و اینها هست که خبری که نمیدانیم چی هست از کجا اومده اون جای خودش خبر عادل رو با صحبتهایی که امروز داشتی خبر سقه رو ظاهراً مطلق وجت نمیدانید چون ادله ی رو تقریباً تختیه کردید نکته دیگه من دوست دارم از خود حضرت عزیزی بپرسم که آیا سیره سیره یا بلا که ما به عنوان دلیل وجهد خبرانی ها میاریم خودش زنناوره یا علماوره؟ چون از نظر, از نظر, از نظر شما همین رو میشه یکی رت کنید به فرمایید زنناوره یا علماوره؟ خوده بی نفسی. زنا همینه این مبنای اشتباه شما همین یعنی شما بنای عقلا را که دلیل حجیت خبر واحد هست و میخواد یک ظننی رو دستشو بگیره بر سنت به علم و علمی بکنه این رو این دلیل شما میگه زن زنا و این سایه انداخته توی تحقیقات شما ما بنای عقلا را برای این میاریم جلو که می‌خوایم خبر واحد رو علمی بکنیم یعنی از زن بیادیمش بگیم آقا به دلیل قدعی حجیتشو ثابت کن دلیل بله با این دو شرایط حجیتش دیگه بنای اقلا با شرایط حجیتش بنای اقلا با شرایط شده جد زنون نیست که اگه جد زنون بود که نمیتونست خبرواید حجیت کنه که زن با زن حجیت میشه ولی زن ما به خبرواید بگیم علمی چرا میگیم علمی؟ چون که به واسطه علم حجیتش ثابت شده. اگر این نکته رو توجه کنیم دیگه نمیگم ای یک زن می بیاد با قرآن بخواد مواجه بشه این ها این هم یه نکته و من چون حدث قویم این بود که شما همین را گرفتید و چون تو صحبتاتون و در همین نوشتن هم بهش پرداختید این هست و این همه ماها تو حوزه ها خوندیم دیگه یه علم داریم که علمی زنون خاصه حجیتشون باید به علم برسه اگه به علم نرسه که باز به درد نمیتوره. حالا. دیگه مبنای شما در تخصیص مبنای شما در ماهیت تخصیص چیه؟ آیا از باب حالا از تقدیم از هر هست بر ظاهر از باب نمیذارم حکومت هست اینها رو خب اینم باز تأثیر گذار هست یه بحث شما تو بحثای دلالیتون تأثیر گذار هست که اینم اگه باید توجه میکردی شاید بعضی جاها به نظرم یه اشکال های فندی وارد نمیشد جان؟ آمده اما از اینها بگذریم عدل حجیت خبر واحد رو فرمودید قاصر از اثبات حجیت خبر هست اینا رو را... از خبر ثقه بله دیگه اصلا باری از صریح بله حاج این که از خبر قاصد از حجیته برام من نمیدونم چطور در واقع این رو میفرمایید بنای اقلا رو هم ادعا کردن هم ثابته هم این اقلا هم میتونید یا بنای متشرعه بفرماییش شما البته شما بنای متشرعه فرمودید ولی در بیانتون به سخن فوقه ها تمسک کردید بنای متشرعه در همون بنای متشرعیه است حالا کار به فوقه هاش فقها فوقه ها یک بخشی از است. اینها هم ادعا شده هم شما میبینید در بنای و هستن کاری به این ندارند که این خبر آقا در برابرش قرآن باشه یا نباشه بنای اقلا چه به قرآن داره بنای و هستن میگه من این خبری که میاد خبر فرد عادلی باشد دروگونه باشه من این رو هم و شما هم که اتصالش به زمان معصوم هم که ثابت کردید در جای خودشون و تاییدش هم ازشون گرفتید و اینها بالاخره یا ها حالا وقتی سیره متشرعه میشه باز میشه این حرف از قران وسط کشید فرمودید که برخی از این رواتی که تایید شدن فراتر از یک راوی بودن اینم باز حالا فرضواذن جناب استاد من نمیخوام بهش بپردازم این نمیتونه چیزی رو ثابت کنه حالا چون فراتر از عیث راوی گریشون رو امام اونجا تایید کرده ثقتان حیث راویگریشون را سا... سرید نهی که حیث فقاحتشون کاری به فقاهت نداره فرمونی دامده دلیل سیره خبر موسوقم به اصلا مطلقی خبر این هم باز واقعش در بین سیره اصلا سخن در مورد خبر سیقه هست اما اگه مقناعی دارید میید که خبر سیقه هم حجت نیست مگر موجب اگر مو... اینکه موسوقم به صدور باشه. اون یه مقناعی دیگه است. اگه اون مقناع رو میفترید بف بگید بنده در بحث حجیت خبر واحد خبر واحد حجت نمی داره خبر سیغه رو حجت نمی داره که موجب ایمان باشه خب علم عرفیه اگه علم عرفی شد که بحث نباید بکنید که البته با این حال بحث دارید اجمالا که علم عرفی رو ثابت کنین که مثل یقین هست یا نه ولی دیگه بحث زیاد خارج از موضوع میشه یه جورایی و اما اینکه روایت ارز را هم شما مطرح کردید من چون وقتم کمه یه از این چند تا نکته اصلی زابطه ای که بیان کرد تو من اشاره کنم دو تا ذابطه بیان کرده چون وقتم کمه پرمودید میخوام بعضی ازشون میگذرم زابطه ای که بیان کردید تا ذابطه بود یکی اینکه که عرضیابی عموم و اطلاق باید بشه و بعد هم عرضیابی روایات بشه خب این زابطه ای که همه ای ها دارن دیگه این را یعنی شما میفرمایید عموم قرآنی را عموم آبی از تخصیص رو میگن تخصیص میخوره این که معلومه این مفروض ما عام میاد که آبی از تخصیص نباشه دیگه عام آبی از تخصیص محل بحثمون نیست اون اصلا مقتضی در شما خصوص نیست تا اینکه ما بیان بگیم اصلا این از این و اما اطلاق هم همینطوره این که میگید عام باید در مقام تشریع اصل تشریع نباشه بازم همین است اونجا که اطلاقش محل اصلا اطلاقی نداره یعنی یکی از شرایط انقاد اطلاق اینه که در متن اصل تشریع رو بیان نکنید پس این اصلا محل بحث خارج اینا رو ثابته ذکر نکنید. محل بحث اون مطلق است که در قالب قابل تقیید و قابل تخصیص و الا مطلقی که قابل تقیید نباشه یا عامی که قابل تخصیص نباشه که محل بحث دوم ارزیابی روایات. این هم روایاتن رو هم دلالتاً هم سنداً همه اونها هم محل بحثه که ببینن دلالتش آیا بدونه‌ای هست که حتی به خصوص چه اون جاهایی که عام منوجه چه اون جاهایی که عام مطلقه همش ارزیابی میکنم ببینن نسبتی که با اون آیه قرآن داره چی هست اگر چنان چه از هر بود یعنی خاص بود اون موقع بر اساس اون مبناشون که درستم هست میگن خب از هر شد هر دوشون هم که حجتن هر دوشون هم که زنی هستند نکته ای که از جتالی توجهی ما رو کشوندی توی هم نوشتتون و هم فرمایشتون قرآن سندش قرآن سندش قطعیه چه ربطی به دلالتش داره دلالتش که ظنیه عمومات و مطلقات قرآنی هم که روایات مانند عمومات و مطلقات و روایات هیچ فرقی از ذات دلالت ندارن که اصلا نمیشه فرق گذاشت واسه رو بس در مقام دلالته و این که بعض فوقه ها بعض اصولیین هم گاهی خطا <تصفح> داشتن که گفتن این چون قطعیه اون ظنیه خب اشتباهشون علمای دیگه تذکر دادن دیگه دیگه نباید شما مرتکب بشید گفتن و رد کنید سند که بحث نمی کنیم که بحثمون در ظهور است اما نکته که چند تا نکته من عرض می کنم اگر خبر سقه حجیتش ثابت باشه بر اساس اثبات حجیتش باید بتونه با ظواهر قرانی هم همراه بشه یک حالا دیگه فقط کیترا مثلا برمیگم دوستا دیگه هم بگم یکی اینکه فرمودید خبر واحد مخصص رو قبول ندارید خب اگه قبول نداشته باشید دیگه خبری باقی نمیمونه که تمام خبرها بلکه به قول هم صاحب کفایه هم بلکه دیگر تصریح کردند که اگه تازه بگیم همچین خبری هست هیچ خبر روایت نیست مگر اینکه یه عام میره داره تخصیص میزنه دیگه و اما نکته دیگه اگه ادله خبر واحد شامل خبر مخصص نمیشه اون طرف هم بفرمایید که باز بزرگان ما فرمودن من چیزی از خودم نمیگم میفرمایند ادله حجیت آم و مطلق هم فرقی نداره اون هم دلیل نداریم که میتواند ظواهر این سام مطلق در برابر روایت بیسته اون طرف هم دلیل حجیت نداره عام قرآنی و مطلق قرآنی دلیل حجیت در برابر ظاهر روایت در خبر مخالف نداره اینو هم سادک پایه هم دیگران هم فرموندن میبخشید ابن هنبل همینه میکرد دل <s server> حالا ki... این تأیید بود یا که نمیدونم همونوی یا تأیید یا تشریح؟ احمد ابن هنبل میگه که خبر بر اطلاعات مقدم جسارت رو ماشه قبل از حکیماله چهت ناقضان من که یادوبری کنم اجاهای خادمی ابتدای بحثشون بحث نظریه بوده تو بعد محلنها نازده یا درای دنده می کنم نظریه خوب توانستان رو دادن من یادوبری کنم محیارهایی که برای پرسی ارزیابی برای نظریه تنگوزی در نظر گرفته شده بیان روشن مسئله که نظریه مکتوب فخروند هست میزان پرداختن به مبانی نظری و قوت تحلیل موجود میزان تعجب پیشینی موضوع و استفاده از آخرین تحقیقات و منابع در سوریه بیان کامل و تبیین اصول اجزای نظری باید واقعا ما این نظریه الان چارچوب نظری برات نوشتن شد بیان اشتراکات و فراغات نظری با نظریه های رقیب موجود درش علمی انجام کار و برنامه شناسی تکاورق یافته‌های مورد نظر با عنوان نظریه ای ایوان و دستاورد نظریه میزان تصویر گذاری و, و اشتراک موضوع نسبت به سایر حوزه علمی بررسی خواهد شد زمین سازی ارائه پیشنهاد موعق برای تکاورق از این باب اثرام که نقش های در جزئی و متعددی که ترک میشه بر برای قرار ما نظیم نشه که اون کلیت نظریه رو از دست ب بگیرون برای اساس نظریه اصلا خودش در هر دو غاره ارائه نظری هست. حالا جزی ها رو حت های جزی لبهه پذیریم یا نهپذیرناسم از این منظر هم خواهشم است که بزرگران اسافی می و هم مد نظر قرار بدن تا بعد، پاسخ جناب استاد دفوری رو هم با لحاظ این مهیارهای کنی و های ایشان نظریه قبلن نظریه نباید قبلا مطرح شده باشه و دربارش بحث شده باشه اینی که ایشان عنوان نظریه آورده قبلا بحث شده، تموم شده کار حالا این رو دیگه بیزن به داوران نبیگه با از نظریه فنی نظریه معنیش این حالا بسه با ذکر صلواتی از مسئله جنب استاد دفاع کردم اجتا <تصفح> باید از آقای خالیت هم دفاع کنیشم <تصفح> بسم <با>. بسم الله <تصفح> حالا تفلوش شکل کرد که همین که هر زیادت دارد یک سری عبکار و حال تن دوباره رفتن مطالعه گامل یک کردن شاید این ناخات کنسان چیزی بخواست شکل که هم رسیدی از آنی کارمان این مسئله تأثیر گذار هست یعنی اهمیت داره و خیلی اثر داره در که در نوشته ایشون آمده این غیر قابل تردید و غیر قابل این کار اهمیتش داریشت و تردیدی نیست تردید. ولی در این که این نظریه هست یا نه من این نوشته که مطالعه کردم شوانم تعمالی که دی بود یعنی کردم حالا البته این موقاتی را که چنو اینا اینا قرارو در ما ندارم نه بود یعنی در نه نموس اینا حالا اینا باید مجموعش باشه یا اینکه ولو یکی از اینا باشه مثلا نظریه مشهودی اینا اگر مجموعا باشه که خب ببینید یکی از خصوصیات نظریه اینه که قبلا نبوده هست بوده دیگه حالا گرچه به نظر حقیق منقته نکرد مثلا ببینید در مسئله خودجیت خبر وارد مبانی مختلفی داریم یک مبناه اینه که معیار وساقت راوی باید تمام راویان سقه باشه مثلا آقای خویید دوشتر دو این ای کسانی میگن نه باید وصول به صدور پیدا باشه حالا ولو اون از راوی باشه یاد قرآن دیگر یک مبناه میتونه جمع بین هر دو باشه بودی به صورت قضیه منفصله مانع ترخلوب اما وساقت راوی در تمام طبقات و اما این که به صدو به صورت مانع ترخلوب میشه هر دوش باشه میشه که نگه کشم که باشه برقال جوانی مختلف یکی از نقاعص در این اتوره حضرت آری و همین طبوت های شما اینه که هنوز مبنای خودتون در اجت خبر واحد مشخص نشد که شما بر اساس چه خب ما وقتی که این موانی را در نظر بگیریم الان میبینیم به هر حال نظر شما اون که من نوشته به دست بارده اینه که شما میخواید بفرمایید که قرآن قرآن کریم عموماتش اطلاقاتش با اون خبری که غسوق به صدورش باشه موسوق باشه قابل تخصیص هست اما به غیران نه خب حالا این خبر موسوق خبر واحد یا نه اول فرمایشتان به دست میاد که نه یعنی شما الان تو همه نوشته که بداری اونجا که عباراتی میخونید به ذهن میاد که خبر موثوق دستینه خبر واحد میگه خبر واحد حجت نیست ما بعد میگید خبر موثق بعد در اونجایی که عناوین رو تعریف کردید میگید میفرمایید خبر واحده خب ما مالا مالا میبلغه حد این با هم خیلی فرق میکنه مالم یبلغ حد تواتر باشه همین خبر موسوق هم میشه خبر واحد پس ما خودتون به تخصیص کتاب خبر واحد به اینم نظریه طرفدارم داره یعنی در میان علمان هستن کسانی که خبر خب اینه خبر واحد که میگه مطلق خبر واحد که نیست بلو سنده زیر باشه اینکه نیست که خب خبری هست که قدیت داشته این قدیت دار یه مبنام اینه خبر موسوق خبر موسو خبر واحد است و باگه با این باشه الان یه نظریه که طرفدارش زیاد داره شیخ طوسی رحمت الله علیه اون قدماهایی که شما پیشیا ف... ف... ف... فرمودید اینا به زمان قبیله حالا من نرفتن دقیق اینا نگاه کنم به زمان قبیله اونا هم همین نظرشون بوده یعنی خبر موسو خبر موسو. این خبر منسوب خودش خبر واحده درده خبر واحده دیگه مالام یبل حدت تواتر خود شما همون تعریفی که باز از خبر واحد ایرای فرمودید فرمودی خبر الواهی تو به معالم یبلغ حدت تبات و سوا اون کس دورد رواتو انقلد از معالم اینو نقل کردیم نه از امینه می خواهش کنم که قول به این که ما بگیم قرآن کریم عمومات و اطلاقاتش قابل تخصیص هست به خبر موسو اون قول طرفدار داشته در میان علمان پس این نظریه جدیدی این برمنی ممکنه ایشون من به ذهنم اینجور اومد موضوعی که نه مطالوس ممکن بفرمایید که ما اون زوابتی را که معین کردیم دیگران بیان نکردن خود زوابت من مطالعه کردم چند تا که هست اینجا همه رو من به نظرم همه علما قبول دارن مثلا یکی شینه امکان تخصیص کتاب بالخبر الموثوق و المتضمن به فضلا عن الخبر المتيقن اینا دیگه این چیز زوابتی که درصا من میگم یا نه خب این اگر باشه این همه قبول دارن میگن باید عام و مطلق عام و مطلقی باشه که امکان تخصیصش باشه همین که میگن آبی از تخصیص یعنی اگر نص یا کن نسته مثلا یه دوری هست که با توجه به قرائن قابل تخصیص نیست اینا هیچ کدوم از آقایونه که قائل به تخصیص قران به خبر واحد هستن قابل تخصیص نمیدونه پس امکان تخصیص یه ضابطه ای که همهش قابلان این تخصیص کتاب خبر الموتود فرموزی لحو لف... سلاس و زوابت اولاً ضرورت و احراض استحکام دلیل مخصص تو این هست اینه کیه که قائل میده؟ هر کی قائل به تخصیص اینو قبول هر روایتی که نمیگه مخصص اون روایتی که مستحکم باشه و روایت باید واجد شرایط اعتبار اینه خبر واحد واجد شرایط اعتبار که حالا البته تبقیل مبنایی وقت که ما به این هستیم که راویاش همه سطحه باشه دیگه این معتبره خب این مبنا را که داشتیم یه شرطش اینه که میگن مورد اعراض قرار نگرفته باشه یه شرطش اینه که معارض نداشته باشه اینه بخست... بر برگیت میگه یه چیز اضافی هم داشته ببینیم هر روز نمیدارم اون چیز اضافه ای که شما میفرماید چیزیست که های دیگه قبول ندارن آور آ خب اون اتمیان آوری داریم دیگه طرفدار داریم میگن آقا مئیار در اعتبار خبر واحد اینه که وسوخ میگه کنیم به صدور این, این طرفدار داره دیگه پس فنوری اگر جهت طرفدار بخوام بگیم این فرمایش حضرتالی طرفدار داره این که فقط شما تنها به این قائل باشید تا بگیمش نظریه از جهت زوابط هم بگیم خب این ز... زوابط هایی که اینجا ذکر شده ضرورت و احراز قابلیت دلیل گت تخصیصی نیوسته اینو حناق قابل نذار چون پیدا کنی کسی که اینو قائل نباشه سومیشان ضرورت و رعایت تناسب بین مست و بین دلیل العام کتابی و بین دلیل مخصص و المقید اینو همه قابل می ست ضابطه که بیان فرمود هر سه تا که دیگران قابل است و لزوم به نظر حقیق حالا اینجور که یه اولی نکته اینه که اصلا در نظریه بودانی تعمله حالا این شوای خلاصه‌ای داره که بحث داره که حالا دیگه هم بمینید. این یه نکته یه تحافتی هم که حالا زمنان این بود که تحافتی هم بین نوشته شما هست که یه جا خبر موسوق را شما قسیم خبر واحد قرار دادید یه جانبه بینید که تعریفی که برای خبر واحد کردید شامل همین موسوق هم میشه این را یه تناقض دید. باید شما مبنای شما که روشن باشه نکته دیگری که باز به نظر میرسه حالا در شما یه سری عوارض چمردید برای روایات، تصحیف، سخت، پلان پلان این چیز داره که بیان کردید و اینا خب ببینید در مورد قرآن کریم هم البته سند. صدورش قطعیه که از جانب خدا اما در فهم معنای آیاد یه سری قرآن لازم داریم مثلا یکی فضای نزول آیاد در چه فضایی نازم شده این در فضایی که نازل شده ما باید به دست بیاریم مثلا سبب نزول داشته یا نداشته اتفاقی افتاده بوده سوالی مطرح شده این آیه نازل شده یا نه همینجور ابتدایی که اون سوال و اون قضا ها تاثیر داره در فهم اینا خودش باز از طریق اخبار و روایات ممکنه تاثیر داشته باشه استفاده داشته باشه بعضی هماده باشن جعل کرده باشن اینا یعنی همه این عوارضی که شما در باره روایت گفتی که میخواد روایت ظریفش به میگه اینجوری نمیشه خیلیه در باره فهم قرآن مثلا چون خود قرآن, قرآن قرآنی داره اون قرآنش و از, از اخبار و روایات میلنه هست خود فهم قرآن خب برحالی دلیل زنیه دلیلشون سیره اغلا سیره اغلا که مثلا به زباهر. خود اغلا آیا به مطلق زباهر کتاب استدلال میکنه یا زباهر کتاب بعد از بحثه از مخصص اینو وجدان وقتی خاصی بنو سراغ مخصص خب باز همه مشکلاتی که الان گفتین هست اینا فرض شما یه طرف کتاب رو قرار دادید مسلم و قطبی به هیچ اصلا جای مثلا تأمل و اینا نیست از این طرف میاد روایت یه مقدار ضعفاشو زع... میگید میگید که نمیشه به نظر میاد که این مطلب اینه که به همه ابعاد بهش توجه نشده نکته‌ای که درباری اون اون روایات البته بعضی آقایون فرمودن منم یه اشاره‌ای بکنم فرمودید مثل یونسب نبدالرحمن سقه یا مثلا الامری و ابنهو این شما فرمود شخصیه این تعلیله میگه یونسب نبدالرحمن سقتان آخذان یعنی چون هست که یعنی اگر سقه بود مسلم دیگه میتونه ماله و, و این در واقع یک میعار داره دست میده یعنی از سقه اونم همینجور میفرماید الامری و ابنهو سقتان تما عد يا اني فانه تعني دو عد ببین اول میگه نا این چون سقه هست پس این پدلو چون کادله ما ب... نتیجهش میشه از هر سقه ای میتونیم خبر را بپذیریم مطلب دیگری که حالا امام فرمودن این نکته ای که در قدما من حالا فرمان شاه اقوند رو البته بنا چیزو فرمودن آقای خادم اینا من تر... رب... عبارت اقوند نوشتم می میفرماد الحق یاورد و تخصیص کتاب به خبر واحد معتبر به خصوص لما هو الواضح من سیره الاسحاب علی العمل با اخبار الاحاد فی قبال عمومات الكتاب الا زمان الائمه علیهم السلام این فرمایشه که اخوند ازش به دست میاد که این تخصیص کتاب به خبر واحد معتبر این تا زمان ائمه بوده منتهی مبنا روی اینکه خبر واحد معتبر کلامه ما بناش کردم حالا بعضی همون که فرمایش شما هست تو کردن بس نکردن اینج ماشین کفایه اشکار گرفتن داخل بله حالا بدون بحث من ها بله این رو من خب حالا نمیتونم چیزی بگم که حالا من خودم داشتم جامعه اصول فقه میدیدم همون دیدم که بعضی از اساسی اشکار گرفتن بعد، حالا البته این نکته هم که من اینجا داشتم بگم آقایونتون فرمودن اشاره میکنم برای تاکید یعنی منم مثلا اخبار طرح تر، طرح روایات مخالف رو با کتاب اولا مخالف بودن با کتاب یه چیز عرفیه عرف ارخ وقتی که یک کتاب عام می داشته باشه در کنارش یک روایتی باشه که خاص باشه اینو مخالف نمی‌دونه خصوص ببینید شما در نظر بگیرید اگر یه صاحب کتابی حالا قرآن تجوج داره و استش اشاره هم کرده تویش حضرت مولا چه حالا به نظرم میاد که در کل توجهه ببینید اگر یه صاحب کتابی یه کسی کتابی نوشته خودش بفرماید اینکه من مثلا اینا را سربسته بیان کردم کلیاتش رو گفتم خصوصیاتش رو مثلا برید از پولانی رو مثلا فهمودن این که شما به حال قرآن عمومات اینا داره خود قرآن فرموده به انزل نا الیک از ذکل تو بینا لناس ما این آیه داره ما خط میده مالا میدونیم دیگه در قرآن مخصوصا حتی آیه تباتبایی طبع رحمت الله علیه آیه علامه تباتبایی طبع که خودشان طرفدار تفسیر قرآن به قرآنه میدونی دیگه, دیگه شاخصه دیگه تو این زمینه در این حال تو مقدمش میگه در احکام روایات قجتم و معتبر ما باید به روایت می اصلا ما بدون رجوعه به روایت نمیتونیم از قرآن درباره یک حکم شرعی مثلا نظر قرآن رو دست و سو فرمودل به توبع لناس ما زلهله وقتی اینجور با... مثلا شما میفرمایید قرآن رو ما بیام با یه خبر کنال قرآن فرموده مثلا اگر اه... ان انت... انت... چیزی بود لکم نصف و مع ترک از واژ کن برای شماست نصف آن چرا که ازواج شما خلاصه بس خودتون به جای گذاشتن اگه پرزن نداره خب ما بیا اینجور بگیم قرآن قطعی و تو دوره ما باید اصلا دستش نزنیم خب این ماترک ظاهره نهایت ظاهره دیگر نداره اولفی. این ظاهر آیا مراد خدا هست یا نه این فره برای که شما برید تخصیل کنید کنی کنید کنی وقتی می تفخش می میبینیم مثلا نسبت به زمین استثنان شده تخصیل کنیم همه فوقها ها که اینها که بیجهد بی جهد تو داره بعضی آقاینم موجود. ولی این نکطیا مثلا فرض کن در همین می‌فرمود مسئله اس به صورت قطعی در قرآن واژه در قاموسات عدتالی بود خب بله درست لذکره مثل حظ الانثيين اما روایت هم داریم که اگر اگر اینکه وارث قاتل بود ارث نمی‌بره اگر وارث کافر بود ارث اینا چیزاییه که باید از خود پیغمبر اکرم ما را یاد بگیریم از بزرگان در هر حال یعنی از کسانی که خدا خودش این را مفسر کتابش قرار داده است نکته دیگری که البته بعض این هم ممکنه همونه باشه که دیگران گفتن ولی به جهت این که منم بخوام بگم اون همونه اجکاله دارم مبینید سیره وقتی که میگین سیره اقلایه همونطور که خود جنابا جامدان در پاسروفه های قادمی گفتید سیره خودجیتش موقوف بر اینه که مورد امزای شاره قرار گرد در عصر معصومی باشه که اون موقع اگر ش یعنی میشه سنت تقریشون سنت یکیش تقریره اونم تقریر معصوم این ازو تقریر ما این سیره باید وقتی میخوان نسبت به خبر واحد بگیم این خود سیره قلم روش کجا اوغلا به چه خبری اعتماد می آیا فقط به خبر موسو یعنی به هر خبری که بهشون رسید مطمئن شدن که این واقعیت داره فقط دو اعتماد میکنن که پرماشاء تاری یا اینکه نه همین که ببینن اون خبر دهنده فرد موثقه ولو براشون زن زن نابر باشه یقین یعنی نابر نباشه تو احتمال خطا میده دیگه حال بخونه محسوم که نیست اغلا کدوم اینجا ندار شما آیا به خبر سقه اعتماد نمی کنن یعنی الان شما می که قرآن آم میدارد این عام را ممکن است خدا عمومش رو اراده نفرموده باشه و اگر اراده نفرموده باشه از چه کسی ما باید یاد بگیریم؟ از پیوند داره اکر یا از پیوند؟ حالا میخوان ببینین آیا پیان برا اکرم و او اصویه حضرت آیا نسبت به این آم سخنی دارن یا نه؟ میریم میگردیم میره مثلا فلان راوی که سقه علی ابن ابراهیم سقه پلانی سقه میرسه مثلا به محمد ابن مسلمه میگه سقه او میگه امام باقی چنین فرموده برای ما حضورت به اتون به حال من به گمانم یه مقداری مسا... یعنی خلاصه دقت لازم نشده تو بیانات بیانها تو این سلام شکر موبوزکت سلامتی و مصرف جلوی سر. الله اصل شرمندگان. اما احیا بله. احیا. احیا کردی لاسی. احیا بله. احیا. باشه هست جدیدی هست یا من به گمانم هم ترویج یعنی در واقع به حال اکثر در این مسئله و این اما چیز نوکی که دیگران باشن من نیافتم اسم غرر اللت... و حناو مقعی و سلاح النبغ آreen و سیدن و عمد و آله و سیدن و حین احنا سلل و آل تشکر از سرایدن که یه در دویایی در برزوی کل سیگازه بعشوره سه که چونه که در بزارت رویون رومان کسوت برگزاری کرسی نوآوری نوعاوری شد جایزه بشین دارم برسولت گوش بود یا امام به برگزاری کرسی هاست که در قوضه خصیب میدان میبیادیه بشم این حجم های سنگیه یعنی هر کس این به میدان کرسی نوآوری و نظری پردازی وارد بشه حجم خیلی سنگینه اما. کسی کس؟ کس؟ نه نه نه. نه. چرا باش؟ از آن من باشم که فکر می‌کنم. ای تا کسی؟ سعی می‌کنم. از همین جوری میشه اشکال زیاد میشه ها هر طور دقیق باشه که اشکال نگی <تصفيق> نه من آخه دوستم با, با کوسیای اسمون یا تاور بودم یا نقدی بودم یا مرتبط میدم زیاد احتیاط شده حالا هدف از برگزاری کوسی ها و انتقادات یه مقداری هم کمک به ارائه دنده همش کمک واشون <تصفيق> ارائه دنده حالا چه به چه نده ارای دندگاه میخوای یک جرقه فکری داره منطقه سطح سبور نمیتونه بکنه جامعه امانه نمی‌دونه از کجا اشکالتش کاری میشه هدف از برگزاری و اشکالات اینه که اون سبک و سیاقش به حد استاندارد برسه این اولین اشکالی که مطرحه که دوستانم گفتن منم میگم قالب نظریه پردازی توقع اینه که آثار و لوازم و مایوترتب علیهش در علم زیاد باشه آیا واقعا این خود این بحث شما آثار زیاد داره یا مذهب به نظریتون حجیت خبره شما ای کاش نظریتون رو میبردید خبر یعنی یه مبنایی اگه در حجیت خبر واحد دارید اونجا نظریه پردازی کنید بعد بگید یکی از لوازمش در تخصیص کتابه یکی از لوازمش در اخبار آهاد اعتقادیاته یکی از لوازمش در تعارض عدله است یعنی مثب به نظریتون اگر بحث حجیت خبر بود این سر جای خودش بوداره من پیشنهاد میدم دوم عنوان نظریه است <تصفيق> عنوان نظریه رو شما گذاشتید تقنین تخصیص کتاب خبر واحد در صورتی که اگر مسبب نظریه عوض بشه و این در قادر به نظریه پذیرفته نشه عنوان نظریه هم باید عوض بشه سوم، عدم تحریر محل نزاع به اشکالاتی که جناب استاد آقای محمدی فرمون و به مواردی که جناب استاد عزیزی که ما در مجاوره مجاورت هستیم آقای بابایی فرمودن و منم یادداشت کرده بودم در همین صفحه 4 که شما فرمودید که مثلا آمدید در تی چند بند جوابتو بگی اولا ضرورت احراز استحکام دوم ضرورت احراز قابلیت خب اینا تحریر معل نزایه چیزی اضافه نیستش یعنی صورت مساله رو دارید شما نشون میدی. به نقطه نقطه نظری پردازی شما میتونه اون ثومی باشه ضرورت رعایت تناسب این نقطه میتونه شه. اینجا یا حرف جدیدی دارید یا همه حرفایی که سابقا علما گفتن که اگر عام استحکام داره اطلاق استحکام داره شیوع داره محل ابتلا بوده اگر یه آم و اطلاقیه که همه مردم بهش مبتلا هستن مثل تجارات بیه یه وقتی یه آمیه محلوط به چیز خیلی خاصیه یه مثلا موضوعی نادره ولی یه موضوعی که محل ابتلا همه هست در اون موضوع عمومی اطلاقی ما پیدا کردیم مخصص باید متناسب با اون باشه از نظر اینکه باید اونم در معرض وصول باشه دیگه وگرنه بعضی از آقایینم امروز من دو بار تقریرات آقاین رو نگاه کردم بعضی از آقایین میگن که قبه تاخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد خوب این خوب گفتن دیگه بحثش کردن اون باز نقطه نظریه پردازی شما معلوم نیست کجاست این به لحاظ سومین نکته تحرک کنم که عدم تحلیل محل نزاع. بعضی این مواردم دلیلتون بیریم تو دلیل چهارم یا ادله کفایت نمی‌کنه یا ادله اصلا بیان نشده اینجا مثلا اون مقاله ای که آدرس دادید در مجله اشتهاد من هرچی گشتم پیدا نکردم یعنی سایت مجله اجتهاد و دیدم و هی ای اینور ور زدم مقاله رو پیدا نکردم بعد نه اینجا یه آدرس دادید که من اینو کار کردم پیشینه بحثم جای در عراق چاپ شده آها نبود درخسر من سایت مجله مجله رو دیدم بله مجله اجتهاد تو سایتش رفتم چون خود مجله کاغذی که در اختیار ما نیست مقالات متعدده دیگه <تصفح> <دانه تصفح> <دانه مدرد پرسما تصفح> یعنی قاعده اینه که همراه این تحنامه یه پرونده ای از بحث بیاد که من اینجا موجزش رو می اگه تفصیلاتش رو خواستم برم فلانجا مراجعه کنم ببینم شما الان می گید عدله طرف اینو من مناقشه کردم خب اگه واقعا یه نوآوری در عدله است یعنی خود بحث قدیمیه شما در نوع دلیل نوع آوری دارید یا نظریه در نوع دلیلتونه خب ما کجا متوجه بشیم شما میگید طرفتاران به تخصیص و منکرین تخصیص هر کدوم ای دارن همه این عدله رو من مناقشه کردن به یه تفصیل جدیدی رسیدن خب. پنج من لحظه رسیدن بکنم گیر کرده اینجا همه آروم چیز کرده. این من منده کدا من از اون چیز دفاعی از منده کمی نمست چی میگم چون میده اصلا نظرگی چی میگه و در قدلش هم به تفسیر اینجا نه این اما به اختصار گووز ادله رو به اعتمادی که آیون تا با رمز که متوجه میشن چه برای یک کلمه یا آقای و آقایم هی میفرمدن و از آقایم دیگر هی میفرمدن ایشون میگه من فقط خبری رو مخصص قرآن برای میدم که اون خبر نه خبر اختفه. خبر محبوب رو باشه خب بگه نگفتن آقای اگه آقایم دیگه نگفتن بخشه. ولی در غیر تخصیص کتاب خبر واحد رو عجت میده یعنی خبر واحد رو منم جای دیگر مطالعه نکردم همین رو نگاه کردم دیدم داره خیلی منفره میگه میگه خبر واحد اولا چه عرض ایشون یکی میگه خبر واحد هست یا نیست خیلی به اصطلاح یه ندید را هست یا نیست ایشون مرتفع میکنه میگه خبر موثوق به اسمشو رو خبر واحد یا نمیذارید مهم نیست خبر موضوع و به تخصیص کتاب خبر واحد حجت فی غیر تفسیر کتاب این حرفی ایشونه میگه این حرف ای حرفو دیگران اینجوری نگفتن اگر گفتن خبر واحد حجت تا گام و ماهی رفتن هم نخصسو کتاب هم در غیر موجه اگر گفتن حجت نیست بازم تا گام و ماهی رفتن گفتن اینجا حجت نیست هی من خودو حمله کردم که چی گفته و چی میگه و نسبت خودشو ادعا کردن که اوی مرحوم مؤدب سردبیلی همین اهل بوده ولی من کردم حالا خودش بعد دفاع میکنه ولی خیلی روشنه یعنی این در این اختصارش من نمیخوام از نظر هم دفاع بکنم من تو جلسات متعدد داوریشون بودم حرفشونم ایشونم قبول داشته باشم ولی حرکه ایشون اخیرا هم اصلاح شده این هست قبل یه وقت داریم خلاصه مومنشون میکردیم چون به داری مشکلات جدیتری داشت اما خیلی همان شد سرین که شده این که نسبت مام همونده گفتیم این مام نگفتیم که این خانم این از این مخلص ترمه همونده بود که این این اشخصه که نخوند اشخصه که اونده بود اینواله خبر واحد بگذاریم خبر موضوع با باییام نه بلا این هشی دیگه یه بخشی از عدل شما مرضوط به جایگاه خاص قرآن احترام. یه <تصفح> بخشی از ادله شما مرض احترام قرآنه قرآن سند اول منبع اصلی مردم همه با قرآن آشنا بودن اخبار در رتبه قرآن نیستن هی hey, این تکیه بر منبعیت قرآن عمومات و اطلاعات قرآن خبر واقع در سطح قرآن نیست شما اینقدر اعترام قرآن رو میبرید بالا که جلوی تخصیص رو میگیرید پس خودتون در موارد دیگه قاید به تخصیص میشید در موارد دیگه مثلا به خبر متواتر قرآن تخصیص میزنید به خبر محسوق و صدو تخصیص میزنید خبری که امارات بر صدقش باشه تخصیص میزنید پس اون دلیلتون چی شد؟ اون دلیل شما اعم از متعاست دلیل اعمه از متعاست دلیل رو باید یه جوری بیارید که در خبر واحدی که به نظر مشهور میگه وساقت اماره از اماره زن خاصه شاره امضا کرد این ما هستیم و هیچ قرینه خارجی بر صدق یا کس به خبر نیست فقط منم یه اطلاق قرآنی و یه خبر سقه آیا این وساقت کافیه در اینکه خبر معتبر باشه و بعد بیاد آم قرآنی رو تخصیص دزنه ما هستیم اینجا مشهور این رو میگه دیگه ما اگر شما راه ورود تخصیص رو بخوایی کلن ببندی که خود قبول نداری نمیبند اگر راه تخصیص رو باز میکنی پس در خبر سقه چه مشکلی داره خبر سقه بیا بیاد تخصیص شما اگر میگید این خبر سقه گایی میگو چون از باب اماریت حجته اگر قرائنی پیدا بشه که اماره بودنشو مخدوش کنه چون اماره بودنش ارکی و غلاییه دیگه شارم امضا کرد خب اینم که علمان میگن دیگه مثلا فراش اماریت برای نسب داره ولی ما قرینه قطعی داریم که این بچه نمیتونه مال این پدر باشه فراش دیگه ازش از اماریت میافته دیگه خبر سقه اگر یه قرائنی باشه قطعی که اماریتشو از بین ببره خب اینم که آقایون میگن دیگه فراش اماره بزینه چرا؟ فراش فراش بازی زاهریه اماره نصب بازی زاهریه در مورد ای خب دیگه اماره نسب دیگه اماره موضوعیه اماره موضوعیه اماره موضوعیه اماره موضوعیه حکم ظاهری حکم ظاهری بله بله اصلا فراش نه سوق حاجی سوقو مثال میزنیم سوق سوق اماره ملکیت ولی من قرینه یقینی دارم که این دوزیه باید. باید. یعنی قرائن قطی اماره رو مخدوش میکنه خب این هم علماء گفتن ما نمیدونیم اون مصحب به نظریه شما کجاست این مشکل اینو اگه بر ما توضیح بدیم موارد جمع عرفی هم شما مخالفتی که به نحوه جمع عرفیه اگر اینو ملحق میکنی به مخالفت های تبایونی این هم احتیاج به دلیل داره من نگاه کردم مثلا امروز دیدم آقای زنجانی حفظه الله آقای زنجانی مثلا در جمع عرفی اشکال داره خودش بعضی از ما جمع عرفی میگه آقای این جمع عرفیان زابطه ای نداره شما میگید مثلا خواست بر آم مقدمه گاه میخوا آم بر خاص مقدمه آیا اینو میخواید بگی؟ بازم این یه ای داره بعضی از علما تو جمع عرفی اشکالاتی دارن آیا جمع عرفی رو قبول نکنی؟ یا میخوایید جمع قبول کنید جمع ارسی میخوایید قبول کنید خب جمع ارسی مخالفت در جمع ارسی آقایم میگن مخالفت بدبیه این, متب... این فرق میکنه با جمع م... چیز مخالفت مستقر بازم این یه احتیاج به توضیحی داره منظور شما چیه آفرالله دانه آولکون خیلی <تصفح> دارا داره علل ظاهری در باب اصولاغیه تقریشین دین. اوه نعیمیا یه لحظه یه چیزی هم یادم رفت ببینید باز در صفحه 7 عدم احتمال تقیه در نص قرآنی در نص قرآنی اختلاف مراد جدی از مراد استعمالی قاب واسه‌ایه چه مسئولی داره اسمش تقییه نیست ولی اختلاف مراد جدی از مراد استعمالی در قرآن زیاد علامتش اینه که یه آیه اینجاست مخصصش در یه سوره دیگه است و مخاطب، مثلا بعضی از آم ها از اول جوری سیاقت شدن حتی مخاطب میفهمه که من به خوردریزاش کار ندارم کلیشو دارم به ات میگم اینا مشکلی نداره تخصیص درش <تصفيق> مهدسه که اونه مبارک و در این ما الله کنم قبل از بخوان تکمله و تحلیل و این بحث نظر پردازی رو یه مختصر اشاره بکنیم چه فرق بین نظریه و نوآورری رو بگم ارسال این است که قبلش یک مفهومی هم به عنوان نظر در نظر بگیریم در امور جزئی و کلی می توان نظر داشته باشیم اما طبیعتا نظریه با داشته باشیم نظریه هم می توانیم بگیم نظریه های نوآورانه و نظریه هایی که به هر حال کمتر نوآورانه است بین این در آینامه نامه کرسی ها من نگاه کردم مقدار نبود به علاوه اینکه ای مقدار شاید بعضی معیارها رو در نظر گرفتن ولی من حالا خیلی دیدم اجمالیه برای تفصیلش فکر میکنم بر اساس فرمایشاتی که بزرگ داشتن بدونه که بخوام نقد ارزوان نقد باشه این با که طبیعتا نظریه باید ویژگی هایی داشته باشه معطوف به مسئله مشخص و معطوف به حل اون باشه نقطه کانونی نظری معلوم باشه شفافیت مدعا تأمین بشه نوع نظریه و سطح نظری معلوم باشه ناظر به در میاد در سطح نظر به حل یک مسئله جزئی یا میخوام مثلا در مواصفیخی تحسیص قاعده کنم یا بریم یک نوع نظریه یا کل نظریه میخوایم تحسیص کنیم برال معلوم باشه حد و حودش خواستگاه نظریه نظریه معلوم باشه پیشینه نظری برخوردار از مبادی تصوری شفاف و مستند و قابل قبول باشه برخوردار از مبادی تصدیقی مشخص و شفاف و قابل دفاع برای اساس طبقه بندی عدله و مستندات مشخص باشه که بخشی از حالا در این جلسه ناظر به نقد ادله بود طبقه بندی مقدمات لازم و پیشفرض ها مشخص باشه مبانی دخیل و مبادی بعید قریب و نزدیک و مباشری که قرار از معلوم باشه تصویر شده باشه اونهایی که قرار نیست اون بحث اثبات بشه به عنوان پیشفرض شفاف بشه که اینها رو من پیشفرض گرفتم و در اون سازواری و عدم و داشته باشه جامعیت و شفافیت در تمام عناصره دخیل در طراحی نظری تأمین شده باشه منظومه واری نظری لحاظ شده باشه ارتباط دقیق مؤلفه های نظری لحاظ شده باشه پاسخگوی اشکالات و شبهات نظریه برانداز باشه یا شبهات و پاسخگویی که اصلا مانع شکگیری نظریه میشه برخورداری از روش شناسی روشن و متقن باشه تبیین تفاوت نظریه با نظریه واره های رقیب برای نظریه میگه اونها نظریه واره هاست ما را قبول نمی کنم. تفاوتش وجود اشتراکش با اونها و نقطه قوتش نسبت مونا معلوم باشه برای اساس میزان نوآوری نه حتی بگیم آیا نوآوری داره یا نداره برای تفاوت ممکنین داشته باشه سطوح مختلف میزان نوآوریش معلوم باشه آیا در صورت یا در تحلیل محتوا و ادعای محتوىی. آیا چونان که یک تعبیر یکی از بزرگواران اصطایت فرمودن تقریر نویست یا نظریه نویست و احیانا میزان نوع آوره است مبانی شفاف متقن باشه آثار نظری عملی یا عینی نظریه دقیقه معلوم باشه و میزان اون تأثیر گذاری و همینطور یکی پیشنهادیم هم که فرمودم جنابت کمه هم جنابجای ازدهی یا یکی از بزرگ دیگه یه طبیعین ممکنه یک پیوست های داشته باشه برحال این رو همهالا به عنوان پیشنهاد من پیشنهادم از خدمت حضرت عالی چون نقط های ریز و درشت و مهم و جدی فرابان بود پیشنهاد این که اصل کار رو بذارید بر این که آیا این اصلا نظریه بود یا نبود؟ آیا ویژدی های نظری حالا اونها بهنور پیشنهاد میتونید عناصری دیگه هم خود شما داخل بدونید آیا واقعا یک نظریه است اگر نظریه نوآورانه است میزان نوآوری و اون موادی تصوری و تصدیقی و سایر ویژدیها این قسمت پاسخ های جزئی که این خلال و فرج به هر حال چیست فکر می اونها از اصل نظریه یعنی بر اون و های هم که در ارزیابی دفعه اول عرض کردم اساطیب داور بر اساس اون میخوان داوری بفرماین بلا این ادله جزئی هر کدا مکنون ده جلسه به جو مبانی داخل بست داشتش حتی به از نظریه بودن جامعیت نظریه و این ویژه کلی کلیه نظریه دفاع فرمایید فرماییت ریز جزئی طبیعتا پرهیزم میکنم این حد یک رو ما با تخیرم شروع کردیم یه طوری باشه که آقا میخواست بره اروپای مترجم بود مترجمه اون پنگه نسوار میتوند مترجمه نیم ساعت نه. آقا من پنگه نسوار تو نیم ساعت تو آقا تو نظر خودت تو بگی منم نظر تو <تصفح> آجا ما هم به سهم خود رو... آقا, آقا باید در رابطه با اشکالات بله. ولی درسته جا. اما اشکالاتون جزئی اشکالات فراوانه طبیعتا در این وقت فرصت محدود شان فرصت نخواهند کرد اما چون که قرار کرسی نظریه پردازی باشه یه مقدار باز از عز وارد این شدن که این نظری هست یا نیست نظری جدید یا حرف تکراری این تبیین بشه که اون جزئیات دیگه یک شامی به حال به تک تک عز ان شما میدید ما شما بس کنم دفاع های جانانه هم اونجا والا برای شیخی هست کردم مثلا درخت بله. خیلی خوبه. خیلی در نظر زیاده رو باید باید, باید که مادر فرسیت من به نظرم مسئله که که کنید تحصیلش در این نیدیت که خود نه یعنی یه مسئله یه اصول <سؤال> باشه اشاره کردن با و نظریه با در بند نهم فرم شد و شما ما گفتیم در علم معناش این نیست که تو خود همون علم باید تاثیرگذار در ابواب رو خده یعنی اینکه کل علم به اثر میگه هر و خبر این یک مبدا اگر کسی بیاد منتظر و جهت خبر بشه نسبت به که ابواب تهارت تا آخر دیات رو باید قواا رساله عملیه سون عوض بکنن میشه نظریه یک نظرش همه قبایل جوونش نشده <سؤال> نه، قايده با دي حتى قاعده اصوليانه نه در حد است قاعده اصولي قاعده مراد وقت چند براي مرادجات همیشه قوی و لیوسیتی است که حجیت خبر یا عدم مسیرت و یا عدم ایراد خاطر رو عوض میکنه. ما در مورد مطلب از نظر ما مد مد نظر رو رو من عرض کنم بند بند نهمی که در حاجب بنده بنابراین فرمان که اشتباه تعریف کسی اگر هنر داشته تا حالا در قم به قول نظریه و نسبه تازه ارائه شده با همین قاعده شما با همین فرض پیش برید یکی بیارید قبول داریم رو به عنوان نظریه نه که اینم تشکیل بگه بنده نهم امتیاز همین نظریه اگر کسی جواب این معتقد نشید. اگر کسی ادم بود گیار. از اج از اج استادم بحث این تی که بحث بحث فقیه نبود مدت نظر آن جا. از میارهای کرسی نظری پردازی یا جامی فرمان که بند نهم که امتیازهایی که از داد، میزان اثر گذاری، و اشتراک موضوعی نسبت به سایر حوزه‌های های علمی و بررسی اعتباط موضوعی است. یعنی از منظر آین نامه ها بود. در حوزه فقر، اگر تأثیر گستردگی داشته باشه، مخیلی اینه که مثلا بحث یه مسئله یه حوضیت ممکنه که میسید بکنه کنیده. اینه همه جا که سیاد نیست، مثلا. اما یه همه حوضیت خبر، اصلا خبر. به جزب بگم رفت میشورم کرده بودم که شما یه حرف در این نیزنی البته یه حال اصلاحاتیشون کرده شما میدونید باید کار اصلا قضیه فقه درش انقلاق باید ایجاد کنیم شما اگر باور نظریه بیارید که نصف تاثیر گذاریه ایشون در فقه باشه قبول به قضا درنظریه تشکر بذار یک چوب در خدمه هم از جا. اما مساقت زرارم من نظریه باشه اینه آقای من چه خبر زراره داره نسبت به بقیه یک اخبار دلوقتي. دلوقتي. می دونم دلوقتي. یک صدومه فقه مال زراره نظریه اجازه میدید بریم شنا اصداد قایل اوارد فکر میکنم همه قایلی اصولی میشه نظریه جای دیگه در اصفر اردن با این قاعده اصولیهی که گستر، گسترش در تطبیر داشته باشه نه اینکه که قاعده تارم قاعدتون فقیه یا بعضی از قواعد اصولیه هم همجور قاعدتون اصولیه به تعداد ها مختلف در مورد خلطیت آقایی پس نظریه داری آقایی شما این میشه دیگه دو آقایی خلطیت اصطحابات و ازنگیم قاعدتون اصولیه اما شما بگردیم تو اصول ده جا در جا الان میتونید پیدا کنید در فقی تطریقات به تعداد نظریه آقایی شما این میشه دیگه داری پس اگر اثر داشته باشه در <تصفيق> اگر اثر وسیعی یه وقتی که یه قید اضافه میکنن که نتی آه خویی مثلا در بحث مثلا به ساقت مشایخ ابن که یه مبنایی داشت از این مبنام برگشت تو فتاواش یه موردم اختلاف ایجاد نشد مبنا بود بر اساسی قاعده یه حرف رو زن اما رساله عملی ایشون از اول تا آخر یه مورد اختلاف یه موردی آدم توبست فقط جمعید. یه مورد رو فقط میخواست دیگه که چیز اونم شاید با سیرشون این بر اون بر بدین براش درست کرد <تصفيق> هیچ خیلی نه. شما اجازه <تصفيق> میخرمایید بریم <تصفيق> این چند تا از نظر شما دقیق نظر ما برگشت نداره یه مورد دو مورد من به شما تحقیل می کنم من تحقیل می کنم نه من شما یعنی میگید که آیفوری بعد رجوعش از اون مبناه دستت فتواش عوض شد اما در این خبر اگر اون عوض بشه ده هزاق میدم 1000 تا مخصص از یه 30 مفقو بقیه نگرفتند چرا نفرت چرا دوباره؟ من مفقو هدر اینه نیه. ببایش میبینیم. ببایش بحث مصداقی نکنیم نه دار بردی نه آقا بحث ویژگی های نظریه از اگر اجازه می‌دهید آقا دفاعی بفرمایند. من اینم منظره ای که به کیفیت ایرانی دست در خود عنه شاه کلید باشه همیشه. نه کلید کلید یه درواز میکنه ولی وشاه کلید چند تا درواز پر تأثیر باشه میگن در همون علم در همون علم یعنی در اصول نظریه یه ما میگیم مثل انفر و این در امارات و اصول هفت هشتی خودشون دشونید در همون ولی و در علم دیگه در علم خب علم و اصول علم عالیه تأثیراتش در ف حاجا <تصفيق> ولی عنوانی که حاج آقا تصریح داشت مقداری این امتیاز بندی حالا شاید بعدا اصلاح کردند مثلا در سایر حوزه نسبت بزوارد به سایر حوزهای علم بله موضوعش حوزه ال سایر حوزه های علمی سایر و بررسی ملدی. اعتباط موزه علوم حل بکنه می‌تونه مرونی ده جا البته مهمی شما دادم البته جای اون طراحان باشیم بگیم دو نوع تاثیر تاثیر در داخل امپور تاثیر باشه در بسائر حوزا می‌تونه یه امتیاز مستقلی باشه اگر بفرمایید نه نظریه است نه نوقال از پیش بوده بدون قائل شدن واصل دیگری است. پس نظریه نوآوری هم نیست. ولی اگر چه تفاوتی باشه نظریه است. خب اگر اگر اگر ولی ولیبودی بود با این اشکال دیگه نمیاد. برای پس نظریه نمیشه. نوآوری هم نمیشه. بعد چی میشه؟ اسمش چی داریم؟ حالا دفاع وکنه. یه صلوات دیگه اگر رحمت خدا ما صلی الله حاجه اگر بریم اشکال نداره اگر یک تاییه بود اول حاجه دیگه... بود دیگه فعل بل حالا اون اشکال نداره حاجه ما به فارسی غلط هم داخل بسم یه لبخندی بگیریم آقایه و خیال نکنید <تصفح> بسم الله الرحمن بازم تشکر میکنم از زخمات زباران مرکا چه دخلی که مبرخ شد خطعا حدثشون حکمی به این نظریه و نظریه یک جای درسه حالا جایی نظریه بکار نبرم شاید که بخز آیون هم منتظیرم بلاخره این بحث به تکامل نرسه مشکل ما مشکل های در حوزه اگر آدم بحث جدیدی مطرح میکنه میگن هیچ قائلی نداشت از جن و انس اگر پیشینه مطرح میکنی با دقت میری براش میگن همینا این تکراریه بالاخره این نظریه پرداز بی تکلیف نمیدونیم چیکار کنه نسبت به این بحث آمدم برای حفظ امانت علمی دی بین و بین الله آمدم تک تک این علماء بزرگان ما از قدیم تک تک کتاب های اونها کلمات اونها بررسی کردم اگر دیدی این مقاله در اختیارتون خودش یک مقاله تاریخ چه این مسئله به این شکل هیچ جمع نشده من تحدي میکنم امین بحثه، طبعا این تکه از بحث، پیشینه بحث، اگر جایی بوده به این شکل، به این استقصال، با این, این, این تحلیل، فقط من جمعاری نکردم، اظهار نظر کردم، تحلیل کردم، گاهی از اظهارات مثلا ابن جنید قائل به حجیه خبر واحد بوده یا نبوده، من مخالف بودم، دیگران مثلا خاجعه قائل به این بهش نسبت داد ابن جنید، من مخالف بودم، گفتم نه، معلوم نیست این، خود این پیشینه به این شکل هیچ جا بررسی نشده این اوله دومن مباحث که مطرح شد حتی کلمات یک فقیه تحالا منقع نشد به شما میگم کسی که ادعا میکند نسبت به علمای پیشین اظهار نظر میکند این بدون مطالعه خود نظر شیخ توسی هیچ جا اگر دیدی منقح شده هر یکی یه جوری به شیخ توسی چیزی نسبت میده خود محقق یه چیزی نسبت میده به شیخ توسی. م... علامه حلیه چیزی که نسبت میده به شیخ توسی. شما نگاه کن شیخ طوسی هزار جا در ده این بحث خبر واحد هجت خبر واحد و بحث تخصیص در هر موردی یه جوری معرب میکنه جاهای مختلف ها جا. خیلی جاهای مختلف حالا میخوام بگم متعدد حالا بذار یه چیزی یه نگه <تصفيق> ایم <تصفيق> هلا هماسی صابت <تصفيق> هماسی بله نگه اگر من هماسی تو بکنم با حق سو بله امصافاً انقدر موارد که من جماواری کردم باز هم همه نتوانستم منعکس کنم در خود عده چی میرسه اگر میرم سراغ تهزیب و استبصار و کتابی فقی شیخ برخص و ما متوقف شدن مثل فازل تونی و صاحب وافیه و غیره تتبع تا حد امکان من دعانه میکنم استقصای کامل همه منابع در اختیار من نیست این منابع که خب این آقایون معمولا اگر قائل بودن بعدم تخصیص معمولا بخاطر که منکر حجیت خبر واحد بودن همینجوری با این خلاصه با نیم سر میگذرن میگن چون ما, ما ب... لانه لا يفيد و علم لذا ما به عنوان مخصص ما نمیدونیم در این حد حتی آدم وقتی مراجعا تصور میکنه یک مسئله دو مسئله ما ندارید در اصول در حالی که این دو عنوان خب این یه نکته نکته دیگری که این فقه ها و این بزرگواران بخاطر که در مقابل اهل سنت مرادشون از خبر واحد و انکار حجیت خبر واحد یا انکار تخصیص قرآن به خبر واحد منظورشون اهل سنت اینه که دعا مگر ما چی مستندی داریم غیر از این کتاب ها چی مستند جیز ما داریم دیگه چرا نسبت به مثلا به کتاب های فقهی لذا ما مثلا کتاب خلاف شیخ با مبسوتش با نهایه با سایر کتابهاش ما فرق میگذاریم میگین خلاف در مقابل اهل سنت اما اصول, اصول اصول دیگه در مقابل اهل سنت اهل سنت نیست اونجا حرف مذهب داره به مذهب نسبت میدن ما میگیم نه مرادشون از خبر واحد یعنی خبر اهلی سنت اونا سقه نمیدونن عادل نمیدونن چی میرسه میگن خبرشون سقه سق سق هست یا حجیت دارد یا حجیت ندارد فا ما اصلا فقط نسبت به چند نفر از اهلی سنت قاید اکثر میگن اونها توصیقات اونا ما نمیترزیرین فا از اول در میبردن از که میترسن؟ این کتاب خاص ما این کتاب های اصول مقارن نیست کتاب وفق مقارن نیست خب این درباره پیشینه اما نسبت به بله بعدا هم یک نتیجه گرفتم از این پیشینه نسبت به اصل بحث اصل بحث کجا همچنین بحث مطرح شد منقحه به عنوانه که ذابته تخصیص کتاب به خبر واحد کجا این عنوان دیدی یا میگن این نمیدونم حالا یه نکته گاهی یک از بزرگواران یه نکته دارد من نمیتونم رد میکنم همه حرفشون تکراریه هیچ اظهار نظری جدید نه به عنوان به عنوان باب تخصیص کتاب در قالبی یک ضابطه یک دو سه چهار پنج ضابطه اگر دارن در کجای کو... اصول هم چین چیزی شما فرموندی همه فقهای های ما انجوری همه اصولی ما کجا از بسم الله وقتی میرسن به یک مسئله ما این ام... نمیخواهیم عجیب خودمون میگیم این یک واقعیتی که در در دست ما هست میشه امشب میبینیم کجا فقهای های ما نسبت به تخصیص اول می میای... آین آیه بررسی میکنن؟ بعدن بسم الله مستقیما من سراغ روایاته اصلا کار به اطلاق اصلا هست نیست در چه حدی هست همون مثالی که حضرت علی فرمودی که بله این مسئله ارث زوغه یک فقیه اگر پیدا کردی متن آیه اگر آورد در کتابش من تحدی میکنم متن آیه نه بس اصلا بس که کسی بحث کردن حتی در آیت الاختان بحثن کردن آوردن آوردن در کتاب های آیات الاحکام مثل آیه آوردن اما بحث زیرش نمی بینی راجع به بحث دلالی آیه آیا این آیه چون در مقام قسمت این مقام قسمت قرینیتی دارد بر محدودیت این این سهام یا قرینیت ندارد هیچ جا مطرح شده هیچ جایی یعنی در کتاب های رسمی ما حالا یکی از بزرگواران در بحث خارجش این مسئله مطرح کرد من نمیتونم نفر نداشتم در کتاب های رسمی ما از جواهر به بالا این مطرح کرد اگر بحث دیگه موارد زیاد ما شاء الله ماشاءالله راجع به بررسی اطلاقات قرآن در چه حدی استحقام دارد یا ندارد نه به عنوان ثابته مطرح شد و انوان شد نه در کارهای عملی و مباحث کاربردی ما میبینیم در کتابهای فقهی ما اصلا این وجود ندارد نسبت به روایات روایات همون بحثه که سنتی این میگه پولانسیقه این میگه قرائم جمعوری میکنه برای توسیق یک روایت حد اکثر اینه اما این روایات ناظر مثلا به فرض کن شرایط و شرایط زمان فلان امام این به اندک گاهی پیدا میشه گاهی و مجبور میشن مثلا اختراف تقدیر و 1200 یا 600 اونجا مثلا میگن این چون حجازیه و این رتل عراقی با رتل حجازی فرق، فرق، مدنی فرق میکند و الا اکثر فقه همچین مواردی به ندرت پیدا میکنی میان روی خود روایت کار میکنند و خصوصیات این روایت رابطه بین خود این روایت, روایت چه ارتباطی سیستمی هست بین این روایات اینجاش خالی در فقه که ما میخوام برسیم که این روایات مخصص این در حد استحکام هست یا نیست و این در واقع مسئله من اشاره کردم گفتن نه به معنی فقه اصلا به اطلاقات هیچ وقت ن... نگا نمی‌کنن نه این مورد من نیست در مواردی که میگن خیلی خیلی درووشانه که آبی از تخفیذ میگن اونجا دیگه عبا دارد از تخصیص در چند مورد اما بحث نمیکن حتی این هم خیلی بحث نمیکنن خیلی در حد یک جمله میگن آبی از تخفیذ بله در کجا در کدام آیه آبی از تخفیذ بله دروم آیه اخلاق آبی از تخفیذ دیگه من راجع به این بحث نمی‌کنم این راجع به آیاتی که قابلیت تخصیص دارد این بحث من اینه آم... بله؟, این بله من ما آیاتی که قابلیت تخصیص داشته باشد این دلیل نیست که و عمومات یه امر مسلم بوده یه امر کار نمیکنه بله تصوف به عموماتش تا مشکل موعیده خودش اگر اجازه مفرمایید اشکال دو اشکال اونجا مطرح بشه اگر ما قائل شدیم به تخصیص هر خبر واحد ولو غیر موسوق خبر سقه غیر موسوق خبر سقه غیر مستحکم اینجا دو اشکال من مطرح کردم اشکال اول از طرف اشاره شارع که خیلی اهمیتی بالا میده به با احکام خودش معمولا فقط یک اطلاقات اکتفا نمی کند اگه تخصیص براش مهمه باید راه رسیدن این تخصیص راههای های مطمئن و راههایی که معلوم وصول به مکلح اجازه بده اشکال دوم دو خود مکلف اگر این مخصص در حد و قواره اطلاق نبوده اصلا به هیچ اهمیت نمیدهد یعنی اشکال از دو طرف طرف شارع و طرف مخاطب و طرف مکلف <تصفيق> اما حجیت نسلت به حجیت فقط یه جمله با عرض معذرت نگاه علماء ما نسلت به حجیت به عنوان یک مقوله متواتر. من میگم حجیت یک مقوله مشککه نمیشه حجیت مثلا همه حجیت ها یک نه اینطور نیست حجية تفاوت دارت الآن يا مثال حجية بيّنة بحجية خبر واحد تفاوت دارت قد عن أرفان من تفاوت دارت دون فرح عادل بايكنا فرسقات إن كاشفيته شن ما قال إليك أمارات وحجية خبر واحد أسباب كاشفيته أسباب سببيته خب إن كاشفيته كاشفيته و کاشفییت ما مانند با کاشفیت خبر واحده ای کدوم عرف این میپذیره خب بین حجیت ها تفاوت هست قطعا حق حجیت قرآن تفاوت دارد با حجیت خبر زراره قهرن تفاوت دارد حالا ما میگیم این حجیت هست و این حجیت هست بس میشه جم کد و مثل دو نفر دوست دو هستن نه اینطور نیست إن يك حجيتي در سطح بالا إن حجيتي مثلا حجيتي همون در توقيع شريف دو واجه حجيتي بكار بورد در توقيع شريف فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله هادو حجيتي هذا حجيتي قولة فقيم هادو حجيتي قولة إمام زمان جوهری جراعت... است استباعی... الحمدلله رب العالمین وجد است اعتبار اعتبار در امر اعتباری ان تغلیت مییود تشقیق مییود تشقیق نمیچد بله. وقتی وجد امر مشکک است داره درعکی که ہوتی ہے مصوبی وہ در غیر سک عزیز من تشقیق یعنی تفاوت در مرتبه ها تفاوت رتبی تشقیق غیر شک کی تشقیق یعنی رتبی تفاوت رتبی وجیت بر این معنی من میکنه تغییر میکنه بصوغ من اما خود اون دیگه نیست یه سری بحث سینمایی راه اندا اساتید فرمود که جلسه دیگه باشه نباشه چطور باشه کیفیات طبق ما جناب استفهام سوال دادند ما جا میخواستیم لحاظ ما با کم با 10 تاخیر 15 دقیقه در یه آدرس یه جای اگر گفتن اخلاق با مخصص جمع میشه بر اساس قاعده جمع راقی و همین بیشتر از این مدر حرفی داره چون که حضرت تالی فرمودید که وقت رو کم دیر شده نه دیگه اینو گرده دوبرد ما جسارتا ببخشید اصد یاذوقه توضیح دارید بعد دیگه در خدمت اساتید ناقد نخواهیم بود خدمت داوران خواهیم بود و فرم های رو تقارر کنند نه نه جا تعیین فرمود که ادامه کار چگونه باشه اجازه بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم بله من در جایگاه نقد نیستم اما به خاطر ابهام اینا رو در صورت سوالی متن می‌خوام ما معبودمون پای رفت تا حالا بحث در مقام بیان دیدن و شرط در باب اینکه چطور اما با عنوان شرط در باب عموم هر چیزی که تا حالا ما اصول نداشتیم این نظر خاص شماست که یکی از شرایط وجیهت عموم اینه که عموم در مقام بیان باشه یا به کسی هم نسبت ماده‌ی عموم رو آم شما در همون صفحه دو و مراد من العام اول اطلاف، الکتابی، الامومات، والاطلافات، خلطی یکون القرآن کی مقام بیان شمول فوق و دائرتی، به جمع هي يقع سلام محمد و كهاني در امور و اخترابات الذي يقول قران در باب بيان اصل تشريع يا بيان صحت ها قابل وصول بهال معنا اعتنته موثق معبود ما تا حالا بود در مقام بیان بودن خود که از مقدمات اطلاق و در وضع و به اصطلاح نسبت به عمومات همچین چیزی نداشتیم هم نه عموم هیچ وقت اطلاقی نیست عموم خودش مادر رو که اطلاقی رفعمها از ماده میکنه. حالا غرض هم این بود که این آیا نظر شخصی شماست یا اینکه این هم میخواد به که می محل کلابین این نقطه. ايه ما... ای... <تصفح> <تصفح> دوم شما در موارد متعدد تو این جزوه فرمودید فلان اطلاق آیات در مهام بیان نیست آیاتی که برای خبر واحد بهش استدلال شده فلان روایات در مقام بیان نیست سعه حجیت رو نمیخواد بیان بکنه در اصولی اصلی مطرحه اینکه در موارد شک در اینکه در مقام بیانه اصل اینه که در مقام بیانه یه حرف مرحوم اخون تو کفایه داره حرف معروف محققین اصولیین هم همه. همینه آیا شما این اصل و قبول نداری که در موارد شک که این اطلاق در مقام بیان یا نه اصل اینه که در مقام بیانه یا اینکه نه میگید اصل رو قبول دارم که در موارد شک اطلاق در مقام بیانه ولی این آیات اطلاقش در مقام بیان نیست این روا صغروی این منظورتون آیا نقاش در فورا دارید یا نقاش در سقرا اگر نقاشتون در سقراست چه قرینه ای در این موارد منظورتونه که بگید روایات داله بر حجیت خبر واحد در مقام بیان سعه حجیت به حیث و یشمولو مثل خبر مخالف عموم کتاب یا اون به قول شما اطلاق کتاب نیست این هم سؤال دوم که اصلا محور بحث شما باید این قسمت حل مشکل بکنه. دو تا سوال دیام داشتم ولی خیلی شروع رو نکنم برای اینکه حق به آیون دیگه هم برسه بتونن به فرمان دیگه من حالا ادامه ندمه. بله. حالا آیون اگر ولی این گله رو از آیون اساتیده ناقد داشتم که من احساس کردم آیون حتی این جزوه رو خوب با دقت مطالعه نکردن همین جزویی که در اختیار ماست اونای دیگه رو نمیدونم چون نسبت به اینکه چی داره میگه این مواردی که ایش من جار یاد داشتم کردم هم خوب حالا دقت گوش این من نمیخواستم جسارت بکنم که نتونستن تلقی کنن مطلب را از نوشته های ایشون مستود. ولی دیگه ولی دیگه خلاصه انقدر رو به من اجازه بدید حتما من این جهات رو میتونم اثبات بکنم در دفاع از ایشون که اونچه ایشون به عنوان اعتراض شد که نمیدونیم شما چی میگی اینجا همون نقاطی که میگید نمیدونیم عبارت ایشون رو بکنم که معلومه داره چی میگه می خب پس دیگه میشه جله مراکم بسیار خوب بسیار خوب من بسم الله الرحمن الرحیم منم برای این که وقت خیلی گذشته و من قرار بگیرم تا آنونم برکت. به نظر من همینطور که فرمودن و آنونم قبل دارن مراد ایشون واضحه که چی بخواد بگیرم و از اجهات در کار نیست اونتها اکثر اشکالاتی که حضور بران داشتن به نظر من خیلی آشان نگیم اکثر بسیاری از اشکالاتشون وارده و در صحت نظریه یا در ترداخی نظریه حالا اشکالاتی که اگل مختلف بود برزی ها توی تراحیب و وجه توی اصل نظریه اصل نظریه هم اشکال داره استدلال هایی که کردن نه نقد نکنی شما اگر الان دا... نه وقت داوری نیست الان وقت داوری نیست الان, الان وقت اینه که شما اگر ابهامی دارین دارید ازشون سوال کنید. استاد ما که راست میگید میگید آره طماشتون ما 90 منه تو تا الان خصوصی آره. الان داوری نکنید الان ابهامی که جلسه اینا که بعده اینا که بعده در گیری الان شما در این اون چه ایشون داره میگه ابهامی در افادهش حس میکنه صحت و صقه میشه نه ابهامی نداره ولی خب اشکال داره وحش دیگه هست فعلا برای ولی زمانی اشکالم نکرده ابهامی نداره نه نه آقای انصافا منصف یعنی اگر آن را این که از آن استفاده می‌کنند، آنها از آن استفاده می‌کنند. اما را به دلیل این است که آنها از از آن استفاده می‌کنند. اما اگر آن را است که آنها از از که آنها از آن استفاده می‌کنند، آنها از آن استفاده می‌کنند. اما که ادله از آن استفاده این که قرآن را تخصیص بزنه فاصله ولی در جای غیر از تخصیص قرآن وجت بهش فتنوا میدید این کدوم عبارت بود نظر جا هست به فرمایه؟ بحث با آقا دادمو بحث ممنبراه بحث من جا تصرف در موازح داره در همین مضور حقیل شدیم به حجیهت خبر وحفی نفسی دیم اینجا یا یا اگر آن اشتباهی اند عدم حضور یک کمبست می نه اگر اینه شاید درست سفر خبر واحد را مثل مثلا مرحوم آقای قوی میگید اگر نجواشی یا شیخ بگه سرعتون سرعتون همه روات این حضور است اینجوری میگی ولی کن اگر فقط تخصیص کتاب بزنه نه اینجوری دیگه حضور نیست این نظر شما ادله شاملی این نمیشه چون این اگر مخصص نیست یا مقابل سوال بنده رو جواب بدی که <تصفيق> آیا شما میگید در حجیت خبر واحد نه. من مثلا مثل مروه کوی میگم اگه نجاشی رو برای یکی این دوات گفت سه گفتم سه حجت است در همه جا تخم بهش فتوا میدم ولی اگه نوبت رسید به اینکه بخواد که بخوا <تصفيق> کلام نمیزنه اینجوری میترونه این خب اینا باید جای تأسیس اینا شما میگید چه من براتون بخونم خیلی روشنه یعنی تسریع در داشت حتما داره, <تصفيق> داره. امروز نداشت ای <تصفيق> این هست پاسگا... ببینید در... در یه نقطه ببینید ایشون سریع در صفحه 5 تو اشتراکاتش میگه عدم و تخصیص کتاب به مطلق الخبر الواحد بل خصوص الخبر المعتقد به مایوج بلوثوق به صدوره خب پس فقط خبر مخصص کتاب این برش درست شد خبر مخصص اونی که وثوق به صدورش هست و اما حجیت خبر فی غیر مایو خالف عموم الكتاب یه جا تصریح داره مرد مرد حالا دیدم یه خودتون ببینید دوباره پیدا می‌کنید اول یه جا تصریح داره که خبر نه نه نه بس نه مشخص تصریحی داره اجازه بدید ایشون مقابل هاولا و هاولا اولا امکانیت تخصیص کتاب خبر موصوب حتی حتی لوگلنا به حجیت خبر واحدی نفسه لا. خب, خب لا. نه. نه نه نه نه نه یک جای دیگه تو همین جزه الان نه. باید بگردم لازم نه. لازم نه. نه. یه جا تصریح میکنه میگه که فرق ما با دیگران اینه که خبر واحد در غیر مخالف اون کتاب نعملو به خوب که که که شما خودتون باید مسلط باشی برای این دیگه بله اینجاست حتما اینجاست یعنی من نه من قول میدم های سرامی تو همین جزوه اگه الان نتونم پیدا کنم که هم همراهی نه من قول میدم یه جوری پیدا بکنم که همه آیون ناقدین اعتراف کنم برای این عبارت میگه من به خبر واحد در غیر بورده بخالفت کتاب به خبر واحدی که مفید وظوح نیست خبر واحده عمل میکنه تصویری داشت تو این مطمئنی که شوکر این شفاف نه نه تو تو این ما بیان کرده تو همین بدید من آی موسوان بدید من خودم بدید حالت اینجا پس بنابانی با اینکه جلسه بعدی هم دارم من آی سرامی من با اینکه جلسه بعدی دارم شما بیشینید اینجا تا من تا پیدا نکردم از جانری بیشین من ندارم میخواید برید که من من با اینکه من الان هفت جلسه داشتم ولی میگم اینقدر اینقدر بدین تا من پیدا نکردم از جانری باشه اجازه جلسه به حضور من داخلی بحث خواهم کرد با آخه از چه چیزی می‌ماند از چی؟ از چه چیزی می‌ماند؟ از چه چیزی؟ از چه چیزی؟ از چه چیزی؟ از چه چیزی؟ از چه آیا الله اتماظ دا اتماظ دا اتماظ دا محمد محمد یا الله. خب این بند خدا اول می‌خاست لبخند شما بزنی یا ناراحت شدی؟ نه من ناراحت چرا گفتی که عربی و فارسیو نجویجا دعوا کردی؟ من ناراحت بینین و بین الله رحمانی من جز سرور شما رو نمیخواستم. گفتم آقای رحمانی شنگول کنه. گفتم مگه نگو این این کلمه من هم گفتم همه مخواند همه شنگ میگوست و میگه آقایی تو خونه جمعیت هم ریاض بود خیلی تعریف کرد. برای که بسیعی ها خیلی آدم و دوری هم جنگت ولی آزیه که بسیعی اینه که از پشت سر هم ببی کنیم خدره تره کدر بی کنیم آنوه از این مطابع خواه این شورت این منم بسی کنیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ای خدای احسان الله یاک الله سلام میه برای تشکر ممنون شما خوبه شما و تا جوتا های از آره، آره، خدا. یه نمونش نمونهش، یه نمونش در صفحه 5. کنچایی که تفاوت بین خودشو بین مرمو اردابی دیه ظاهران ذکم کنه میگه دو آواهر من عبارته استرات هو اعتقاد الخبر بالعمل یعنی خبری که متقضی به عمل عمل می... میگه حجته. فی ما لا نر آذالک میگم لازم نیست خبر واحد با اتتضاد به عمل هم باشه. ولعلّه حتى هم من باب المثال للوثوق بالخبر بره. ما معیار رو عمل نمیدونیم بره. این یک نه این که این ندارد نه این که ال بخواد... نه ایشون اما حالا کرد این یه بزنید بله خب آیه نعیمیان بگید بیان زودتر وقتی رو آیه باشی آیه اگه من فکر کنم اجابا جمع بردی همین باشی اگر یه جرسه بعد مخاندیان همین تقریر حضرت آلی رو مشخص و مفصل استدلالش رو تقریر کنم برای جرسه بعد این جمع هر چیز خوبی به نظر من نوآوری هم میشه این اما الان چون یه با ابهام شد که آیا واقعا اینجوری میگن نه حتما ایشون هم اینو میگه یشون گفتن آنها شفاهی تو همین بیانشون هم اینجا یشون همهش میگفتن خبر واحد من استدلال میکنم که سیره چی فلان اینها همه که این در که صدور حجت است در تفسیر قرآن مطلق در مطلق مطلق نه نه نه بعضی در تفسیر قرآن ما سوال میکنیم که آیا اون عادلی لاجمه نه نه اونجا خسته بندی لا فکر کنم خیلی تون نمیکشه مرحله بحثش این الان تمرکزش تمامه تمام این از این نوآوری ای نیست که همه اونهایی که میگن خبر واحد تخصیص اهداب میزنه با حجیت خبر واحد در مترتبه و منوط به اینه که وصول صدور به وصول وصولی هستند همه حرفو میزنن بله ولی همه اون هایی که میگن وسوسه میکنند نه همه میگن که یه وقت میگید که همه مطلع بودند نه نه نه نه نه نه نه و نه نه نه ما فقط نه نه نه نه نه نه ولی نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه هیچکس نگفته بود. هیچکس نگفته که اگر ما موسو قصد داریم نبودیی، فقط با موسو قصد ما درمانی تحسیسی به کتا برای وضعیت دارای موسو قصد داریم. برای برای فتح وادادم اذیت خبر واقعی موسو قصد نه نه. نه نه. نه نه. نه. نه. یه خانه در فرق رومایی من چیداره میگه؟ کسی بگه؟ کسی بگه؟ اگه این طوری میخوان بگه؟ ما چه موسق و سدوری باشیم در ملاق خاجیه؟ چه موسق و سدوری باشیم؟ ولی در تخصیص کتاب فقط به موسق و سدوری یه عوض یه چیز جلیزیه؟ یه چی؟ یعنی یه ادهی میگن؟ تا کی واصل بود بشن. می خوام شده دیگه, دیگه با... اگر دیگه... دیگه, دیگه, دیگه, دیگه... دیگه, دیگه... دیگه هر کس که دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه... هر... ما هر مبنایی رو انتخاب بکنیم، خبر سفر حاجی حسینی موجود حضوری. ولی به کتاب که میرسیم فقط مصقول حضوری ها رو عمل می‌کنی. یکی همینو این جدید نه دیگه این عبارت این فقط ای ای اون طرف اول نه اولی که من به همین بود فقط اون طرف شمارد. نه نه اول است که امکانیت و تخصیص کتاب بالخبر موضوع فقط اینکه میتونه تقسید دارم حتی لوگل نا به خود همین لو جدید دلیلیه همین لو همه دلیلیه به لو همه دلیلی نمیشه باید کسی قابلی این طرف طرف هر دو باشه یعنی ببین حقیقی که آجابای قائمی از حقیقشو میکنه میگه عدلی خودیت خبر واحد دو جور دلالت داره یه جور دلالت میکنه بر اون دست خبر واحد که قرآن را تخصیص میزنه یه جور دلارت میکنه بر اون دست خبر واحدی که فقط به درد فتوه مخوره یه چیزیشون نداره من دیدم را آفیده کنم این اگه, این من رو. رو. من اگه این را من اگه این مطلب من میگه یه مطلب دیگه ای که اون هم نقابلیه سرفی دیگه جای دیگه‌ای این طرفش اگه نوآوری میینه کسی از فقها مست هست نه ما اتفاقا یعنی... ما با تشخیص بدیم که بزنی... آیا نوآوریه بزنی... یا نظریه. ممکنه کسی ادعاش نظریه باشه. نظریه باشه. بعد ما بگیم نه این در حد نوآوریه. یعنی ممکنه ببینید نوآورانه باشه یا نظریه نظریه نظریه نیست فقط نوآوری. شما ما ممکنه ما بیان کنیم نقد هستن. حساب خود این وایده تو محتوا کاره ما تشخیص میدیم نه نظریه است نه نوآوری فقط نقده داوره با تشخیص ما جایشو نداری شما که اتفاق داره اینم. به بنظر من این فرماشها جایی هست. حالت میشه نظریه. نه نه, نه اصلا نظریه نیست. یکتا احتمالات. داشتی شک دم از اون. دل... نه چیزی مراقبه نیست. یعنی نهایت میشه ایشون یه نکته ی نوآورانه ای در خودیت خبر واحد گفته. اگه اینجوری بگید که اگه اینجوری بگه که ایشون تازه کردن و ایشون فولادمون جلسه که ما ترپن تولف بودی اگه می‌ساعت بشه حداکثر صد میشه. تو این نظر ایشون تخصیص بقید. کتاب به خبر واحد اگر کسی منکر بشه قطعا نه نو آخری بای... کسی نگفته باشه قبله قبل نه به همار ساختار ایشون این تأثیر این تأثیر فرماشین پروسته این تأثیر رو خود خبر بل. واحد میگه خبر باهید شما هر حرفی در موردش بزنی هفتاد درصد توفر قصر حرف های مهم در مورد ولی بحثت اینه که آیا حرف ایشون یه حرف جلیم که یعنی قائل نداره یا بحث دیگه که قائل نداره. قبل آیا داره یا نداره این دا برای اینکه نظریه باشه یا مواویری باشه باید قائل نداشته باشه نه اینم نیست اگر فاعلی هم داشته باشه, باشه. اما قائل تنزیمی کرده مثل مرد. دلیل انسداد که اگر براش قبلا میرزا قومی انسدادی بوده اما الان شیخ انصاری آمده حالا آره. میشه ماشاالله نوآوری اگر یه حرفی را که مثلا فرض بکنید که سال سادهوانی هم نه حرف حرف مرحوم و بهبانی را مرحوم محقق رومیل رو یه تقدیر بکنه تقدیر خوبی بکنه که بشه دلیل انصدار این نوآوری ولی هر اساس یعنی اگر حرف... بنابراین که... ولی اساس حرف مرحوم سرطانیل رو هید به وانیل یعنی اگر مثلا آه... یه لحظه مثلا فرض بکنید که بحث تره تو تو کلمات محقق سانیه کرکی یک اشاراتی بهش آمد همینه دیگه زش همینه ذکر کرده در حد دقیق بختصر ولی ناینی نا که آمده شید ارکانه این دیگه از ناینی نا نا نعابری نیست نظریه نیست چه فرق میکنه شما میگه در اگر حق منه شما میگید چون این قول در کلمات سابقین هست اما این با تقدیر جدیدی عرضه میکنه هست دیگه فرض بکنید تو کلماتی کاشو بلغتا سریح هست سریح هست کاشو بلغتا باشه؟ گفته دیگه گفته دیگه, گفته دیگه. سریحن این رو حرف زده کاشو بلغتا هم سریحن زده مرحومش مرحوم صاحب حاشیه هم صریحاً زده باشه ولی در عین حال و در عین حال آیه صدر که میاد میگه که اونی که شید ارکان او میرزای این وقت این نمیشه نظریه حالا که نه می خب بگم نباید انصاف رو رعایت کرد دلوقتي. اگر طرف یه سطر مسئله رو صریحاً گفته اما به اون مقدار قابل اثبات نیست میرزا این آینی آمده 6 ماه خودشو معطل و شما رو درگیر کرده تونسته قانع بکنه وقت این دیگه نظریه من تو قبول دارم حد شما اگر ولی توی نه حالا با پس بنابراین صرف این صرف اینکه این قور قبلا وجود داره مورده. کافی نیست به تو قید مثلا مسعود با سابقه نمیمونه این میگم واقعا نسکرا باشیم نمیمونه این نباید برای اولین بار باید از دعوی 60 خورده باشه نظریه باشه یعنی اون قید نمیمونه بعد که تایید شده پیشینه ی مساله نمیمونه اینکه خبرون بزنه باشه این نظریه نظریه نوآورانه داله یعنی کرسی نوآورانه یال چیز کرسی نظریه جنن درستون نظریه فلوجون با نوآورانه از نظر همین من مشکل نه شما اصلا به نظر حل درستی از نظریه منابعی نیست. نظریه کاتن با نوآورانه. اگر نظریه نوآوری‌گانی عمیه نوآوری معموله حناشون باید نظریه باشه قطعا نوآوریه دل خودش دارد بردیه بله اون خاصه نظریه خاصه خیلیم میگن نوآوری نداشت وش بر نظریه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه این نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه منطقه امده اینه که اونایی رو که در مقام استدلاع کرده من اینا رو خانه کننده برای خودم که حتما نمیبینم حالا شماها ببینید قضاوت کنید و الا اگر این حرف ایشون یه حرفایی که داره برای تسبیت این حرف مطرح میکنه بتونه این نظر رو به کرسی بنشونه شونه نظریه یعنی همین تفصیله دیگه منظورتان همین این همین تفسیل و همین تفسیل و هم اجازه بدین ببینید بعد جلسه بعد به نظری که نه لازم می ما که الان نمره بدی و اگه جلسه نهایی یعنی بود رد بشه نه نه نه نیست این رد نیست رد نمیکنی همین طور که آقا می فرمود میگیم باید این تفسیل را ایشون تقریر کامل و ادله کاملی براش بیاره برای ادله حجیت خبر واحد دو جور دلالت داره وقتی نخواد برسه به کتاب تخصیص کتاب نمیزنه, نمیزنه،, نمیزنه،, نمیزنه، دلالت البته امیران هم گفته تو همین این باید باشه. اینا را باید قوی بگیم الان ها های هیچ جایی پیدا نکردن الان, در... الان پیدا نکرده. اون شطر دومشون شطر دوم. باید به این دو شطری که ایشون میگن احبیم بکنه بعد ما الان لازمی سویدیم نظریه از اون ما رایم و الان احنا میدیم جلسه اول ما به این, این نظریه از این... که ایشون باید توی از دازیر این دو تفسیر را دو دو شقر را بیان بکنه شفاق اولا تصورا و ثانیا تصدیقا عدلش را بیاره که بگه عدله با جیت خبر واحد دلالت دارد که وقتی میشه خبر که... کتاب را تفسیر بزنه. که اینجور اینجور باشه. ولی اگه اینجور اینجور نبود، فقط میتونه مبنای حضور آن باشه. اگه نگه فقط میتونه نا. مبنای حضور عادی باشه. بگه یه جوری بگه یه ممکن. نه. ببین این چه بگر... میشه؟ بگر... ای... بگر... ای... بگر... ای... بگر... ای... شریف و چیزی حاج آقا اجازه بدید خیلی این متن متمرکز شده در اینکه آیا میشه کتاب رو تفسیر رو باید دنبال کنه اینه دنبال کنه ببینید این درسته دو ادعا ممکنه, ممکنه داشته باشه یه ادعاش اینه که خبر در غیر موارد مخالفت و عمومیات قران و لازم بگه ممکنه بگه اگر اونو بگه که مثل همه حرفی که دیگران زدن تا نه. اگر بگه خبر در غیر موارد حجت ام عرف معروف دیگه در غیر, آه. آه. اگر نگفتن... در غیر کتاب در اگر می گفتن آخه معروف نگفتن تقدار غیر کتاب حجت یا... یا گفتن همیشه حجت یا گفتن همیشه حجت میدونم اینکه گفتن حجت در دلیل با اونها مشارکه میگه سیره ای که میگید قبول اما در اینجاهایی که مخالف کتاب نیست بل. بل. اینا رو مهم حرفه ایشون و ادعای جدید ایشون که میخواد تحول سازه در فقه باشه اون چتر از ادعایشونه که خبر مخالف عموم اطلاق قرآنی حجت نیست در تخصیص اون در جای حجت باشه یا نباشه مهمش اینه نه اینکه در حتما در غیر حجت است صرف اینکه خبر واحد دیدونه که موسو صدور باشه تخصیص کتاب نتواند اینا محقق علوی گفتن گفتن که خودش نمیگه که نگفته میگه بوده تو که بعد ولی در اینا اثبات نکردن حرفایی که زدن قانع کننده نیست برای اثبات این مطلب ایشون میگه من دلیل آوردم 8 تا نه تا اونها دلایلی که آوردن همه رو رد کرده میگه چی؟ همینه دیگه. نه؟ این مشترک و میگه نقاط مشترک با محقق اردبیری دارم و نقاط تمایز میگه اونایی که ادله حجیت خبر نقد مطرح کردن همه اونا را رد کردم. اونایی که ادله بر انکاره و جیت آوردن همه رو رد کردم خودم از پایه دارم یه چیزی میچینم میارم رو میخوام اثبات کنم که آقا ولو ما در غیر موارد مخالفت عمومات و اطلاقات دلیلمون حجیت خبر رو قائل بشیم ولی اینجا دیگه قائل نمیشیم به خاطر این نقاط این، اینه تو هم صفحه اول تصریح داره هر حقیق ببینید کتابا هست یکی این که قوت استدلاست چطوره مثلا دیگه داوران برای این نظر ناقضان تحمیل نشد استدلاران شما ارتقاب اما قبل از اون ببینیم مایی اصلا شاکله نظریه الان کامل هست یضا رو هم می‌فرن. اون که هست، ما همین می‌گه میگن اگر ایشون بتونه به دو طرفش کدوم حاجبات بکن حاجای؟ نه اونو نمی‌توز. ده حرف من او اتونه. او اتونه. او از بنده رو ببینید. اگه اینا دیدی. رو در نظر بگیرید چیز جدیدیه همین همین اوله این بحث مطالعه ملا صدرا نو نیست یعنی چون خیلی ریشه هایی در فلسفه یونان و و داشته ولی <تصفيق> هیچ کس نمیگه ملا صاحب مکتب واقعا این ملا صدرا خودش من از افلاطون گرفتم این از یعنی اینکه که گوشه این این این این این صرف این خاصی نه پس همون بقار... نظریه رو از الان نظریه میسازن ما بخم برای جلسه بعدش بگیم کدوم اثبات کنه سوال رو تنقیح کنید که ببینید خودت آما در همین حد در حد این که بخواد بگه مخصص کتاب و عمومات و اطلاعات کتاب نیست همین اگر اثبات بکنی چیز تازه یا برده اثباتتن اگر فرض کنید بردن هم حالا اثبات داره تو همین مجال تو مجال عدم سلاحیت اخبار و آهات در تخصیص عمومات و اطلاعات کتاب ما میگیم حجت مثلا ایشون منکره یه لقمی کننده نیدانی. برای دفعه همین تکرار میشه برای این تمهیدی چیز چیزی باست... اگه تکرار بشه که دیگه چیز البته آیون ناغدتونم اصلا به نکات بخش قابل توجهی از استدلالات ایشون نفرداختن فقط بله یه کلمات حقی هم تو کلمات آیون بود که مثلا فرض بکنید اینا مخالفت کتاب مخالفت تغییر و لطلا مخالفت محسوب نمیشه مثلا اینا درست اما اینکه حرف ایشونه اینه که چون قرآن اهمیت داشته برای مسلمین شاره اگر نسبت به مخصصاتش هم اهتمام داشته باشه باید عنایت خاصی داشته باشه و لذا با یه خبر شبیه اونی که گفته میشه که مخالفت رد از سیره با خبر واحد نمیشه ایشون در مقابل قرآن یه دعای اینجوری میکنه میگه در مقابل عمومات و اطلاقات کتاب شما یه خبر واحدی که مخصوصا سنی هم باشه راویش بلو ثقص سنی هم باشه به همین مقدار اکتفا میکنین شاره عمومات و اطلاقات قرآنش با این استحکام خلاصه که یک را بقول شر اللیل و اطراف النهار. بله باید واقعا آیه استخصیص نیست که میگه به نحوی که اگر خبر متواتر بود منم میگم مخصص میگه آقا اگر... میگه خود قران میگه برید من تو اودی که آقا میگه برید قرآن میگه میره خراسان اون برید سراغ قول پیغمبر نبرید برید سراغ خبر واحد پیغمبرم گفته به سراغ خبر واحد خب اگر گفته با پس واسه استفاده نمیگه نه گفته که پس به آیه ما اتاکم الرسول فخذو استفاده نکنید برای اجیت خبر بلهزا برای اینکه یه قدم بریج 2 اینو معنیش میشه چرا اگر استدلال دیگه ای داره اونا رو اگرم نیست همین استدلالاتش توسط ناقدین به صورت متمرکز ایشون استدلالاتش رو متمرکز کنه که دیگه از این هش و اون پروبال قضیه خارج بشه که دیگه آيون در وقت مطالعه چون وقت مطالعه یه کذا ندارن دیگه صاف در حد یک صفحه آچار اون نقاط رئیسی استدلال ایشون رو مورد بررسی قرار بدن چون الان به خاطر اینکه وقت پخش شده بود اون جهت اصلی و رئیسی ایشون مفهوم داشت املاک کنید من بنمیشتم که عدله قضیت خبر واحد را ایشون بتونن بیش تمسط کنن و بگن ولو به شکلی که ایشون گفتن لوی بگن یه دلیل ما داریم که اون دلیل مفادش اینه که میگه ولو این خبر واحد برای فتوا دادن در غیر تخصیص کتاب حجت هست آه. اما برای تخصیص کتاب حجت نیست برای یه دلیل اینجوری بیارن کدوم آه. دلیل؟ آیا مثلا عمال عمال دلیل. این دلیل کدومش میگفت دلیل سیره او گذاشت قضیه است. نه نه، خب سیره اینجا رو شامل نمیشه. گفت سیره دلیل لغوی یعنی خدا. سیره عقلا میگه به این خود خج... خبر واحد حجت در غیر فصیس کتاب. برای کتاب نه. آره آره. چرا همین رو میگه؟ همین رو میگه. مثلا یعنی اسنادو یعنی چی؟ وقتی میگه قضیه مشترکاً باید بگی واسه سیره و یعنی چی؟ در غیر تفسیری نه قادر نه قادر میگم قادر به واحد فقط نه قادر تغریرش هیچ اطلاق نداره دلیل سیره عقلا متفق شده میشد به واحد اطلاق نداره که اصلش رو اصلش رو قبول داریم که زنگ زدن اما اطلاق نداره که حد سو فی تخزین کتاب نه میشه. متفق توازن سیره همین همینطور قصد این داره من مسئولیت می‌شوند برای من که هر آبود. بریاست حالا تو جلسه من عضوش بودم. خب مطالعه کردم برای اونجا یه اصلاحاتی کرده من مطالعه کردم و کردم. و و كل لهما. یعنی اصل رو تابطی اما یسان ندارن و لا اطلاق ندارن ول قدر المتعقن به همان لا یصفت حجیت خبر الواحید مطلقاً اتا در تقسیز کتا ایشون آورده آیونی باید قدر متعقن گرفت یه همون که فرماش کردن ما نوش که جلسه بعد تکرار نقد دو پو ها این تو متمرکز شده تمرکش کن توی ادعای که آاجاب تغییر میکنن این را عدلش را متمرکز نیت خبر را این که برای فتوا حجیت دارد ولی برای تفسیر کتاب حجیت ندارد. نه،, نه برای فتوا حجیت دارد نه. این در غیر موارد کتاب. در, غی... در, در غیر در حجیت غیر خبر اطلاق نسبت اطلاق. به موارد عمومات و اطلاقات صالح برای تخصیص نیست. که به صورت ولوش ا... لاغر میگن. ها. در حد ولو ا... که یعنی اگرم قاریبه حجیت اونجاهای دیگه بشیم اه. اینجا دلی... حجت نمیدانیم دلیل وارد اینجوری باشه. دلیل باید اون لوئیت را، اگر برپرز آقا لو هم بگیم، این دلیل اون لوئیت را اثبات بکنه. این خبر باید برای تخصیص و تقرید اطلاقات و عمومات صالح نیست. وقتی دلیل عدم سلاحیت. دلیل عدم صلاحیت دلیل عدم سلاحیت. یک قدر متحقن شو های دیگه نیست. مطلعه، مطلعه دلاله دلاله. اگر در این دلیلی که ایشون داره ارائه میکنه ناقدی نتونن دلیل رو رد بکنن ما هم قانع بشیم به دلالت اون دلیل هم نوآورانه است هم نظریه این, این دیگه بیشتر از نمیتونه بیاره. بیاره. بیشتر نمیتونه نمیتونه من مشابه دلیل دیگه ای نمیتونه بیاره. هر چیز همین. ممکنه تو تقریر جدید یه مقدار منضبطش کنه. اگه این جوره آقا میدونم اخی اون استدلالاتی ایشون رو نقد کردن و رد کردن و ایشون دفاع نکرد شما ممکنه شما قانه نشید از اون استدلالات اما ایشون رو اقناع نکردن باید. در رد فرصت دیگه ولی زی همینه حتما همینه فرصتی بدید نه من جوری... که یه فرصت دیگه بدید متمردی توی استدلال بر اصل مطلب <متحدث> شرط اجله در مفیام شاید خوب نباشه یعنی عادی یه وره نه نه, نه،, نه. اینم من عرض کردم که به همین شکلی جواب دادن چون استدلال روشن رو دو دوباره ببینید نقد عالی و متمایز <متحدث> است آقا استدلال کی برنجه اجازه میدید دیگه خوب کفایت میکنه به که امتیاز دادن نه نه این عامل امتیازی که نباید داد امتیاز رو بعد از آنی که کرد این الان خیلی ممنون از این فرصت رو تحییر کردید قضاها به وقت ازدفعت گرد این از رو تو دانشگاه یه مدل مدر دربید اینجا البته شکل کنم بسرم نه همینه مدلش کنم و همینه دیگه تو دانشقا بگیم همینه دیگه نه نفر نظارت علومه یه جور علمته آقای عزیزم من یه آدم آقای یه نامنه بشتن گفتن به نظر من فقط در حد کرسی ترویجیه و نظریه به نوآوری نداره. این یه آقا رضا اسماعیلی آقا ها؟ از این مثلا سطح این کجوا باید کنم؟ بده دیگه. یه کاری این مثلا جدول برای آن درده سر درسته تعالی. نوشت دیگه آجاها نوشت آی دکتر نوشت اما در مطالبه بکنیم موندش هر الان اون نقطه پرگا اینه نه همین مسروری آی دکتر رو پیوست جلسه بکنیم حتی اینجور اینجور بکنیم نوازه کاری جدید میشه نم میشه نگرفتن ای کسی وقتی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 شهر بود یا بود من آن ستاکر امی ارتباهی ولی فکر می کنم خلا به نظر پرسی به گوزه یه تغییراتی هم دادیم. این ها و به مال حوزه براست این به مباره منابشت چهار نه این ماده هم خارس ها بینند که تغییرات شد. ارها هم به صورت دیگه سود مدرگن شد و شغارانی هم حمید کرد. به آیه تغییر شده باشه، یه نظریه, است. با... نظریه از از هست، و با حال هم دردی بودن موحش از بنام یه نصفر برسید. نه این ما گفتم که بوداست. چون دوره قرهانی از اعضای فرمان بود. این زلزله احتمال 39 جواب شورای مشاوراتی ها میگه که بوداست. احتمال داره اون برای شما حالا، هلو... ما البته جو درام کمیته دانشگاهی بله بله تمام در جواب بله این حواشی ولی همین برای شما نسخه بود. البته جو این جلسه بود حمد برمی者مان هاد آور بسیار این که من می‌خواهم این را انجام را کرده نظر که در سطح اون عوامل و مهم عامل نشه اونم اگر این اثردار باز هم حوال نمی با این اثردار در زمینه ایشون مطرح میشه یه وقتی اینا اونها نشریه کرده یزاس حال بیشتر گفتن بود جهت، اما از یه روز گفتن دوستان بود جهت دوکمه آم، و نامی نام آم نداره، نداره، نداره، نداره، نداره، شک و خطر آم نداره. یه روزی رو. که نادرستی که نادرستی کرد، یه یه روزی که که دارید قابل ہم کو یاد ہے وہ اس یہ وہ وقت ہے جب ہم یہاں این رد به ایزیه گفتم خوالا ردش کنید بردم باید بردم ردش کنید بردم ردش به دیگر خب ما خستمشید خیلی استرس و آنون خیلی خیلی دیگر داشتم ببینید ما هم پا لازم چی میشده اما دعا ببینید آبا یک چیز پسر اینه پسر رو همیشه نکنی که سفرست که اونوی شود آلان آلان آلان به نیست ذروندیه که دیگه است این دست چیه؟ این ای رحمانی، سر... اون سر... نشوریه، این سرگهاریه آگه کنشون ردش میکردی؟ ولی، فکر ردشون بکش ردشون بکش نسیجی هم تجربه جالبی که آقای دیم این کار پس کنید، این همین چیز رو به هست، رو خشنگی در آنگاه همه جا برمونم نمیگا من باهاشتم شد که هم ممتونم اینا رو برای همایش کابلاش بزنید و هماش نماشک ها بزنید میرشه از پامون را نیست همونجو که بزنید، باشد باشد، باشد، باشد، باشد، باشد، که چیز نشه باورد، این مسافتش همیشه قرمزه. این فقطی هست که دوباره نه بذاری بخوان درم. اگر بگیم دوباره بذارم، یکی میتونه هم بگه. حالا اولش باید یک کار بیشتر کنه که دو. اما تلویزیون. آخه خدا را ببخش. آخه ما به کمیت لذت میبریم. میتونیم که ما میخوایم که دوباره نه ما برگزار نمیکنیم که ما فقط مجوز میدیم. دانشجو خودش کار خود خبرگزار کنه. خب ناظر ما میگیم ها ما, ما ناظر میفرستیم دست گاهیم گوش نیر ما شکر آتا رو دیم ما خواهد برگوز ما موجوز نمیگیم ما با اینی واسه